هر مقدم دارم به حضور عزیز مدیر آن محترم سازبان، پرماندار محترم قهرستان و معاملین و مدیرانی که در جلسه شرک حضور دارد. دو دلکه تبدیل کرد کنیم به حضور همه شما عزیزان میلاد حضرت فاطمه زهراز، خدا ملا علایه ها و روز زن رو تبدیل کردیم کنم به حضور همه کانون ها و آریان عزیز و همچنین می کنیم به مناسبت آغاز چهر و, و سال پیروزی انقلاب اسلام و عیاب الله، دحیل مبارکی، بجرد حضور همه عزیزان. جلسه‌ای که در بوداتون هستیم، به شفت می‌هز با رؤسوای مفترم شوراه‌ها و دهیاران واقع در محدود منطق آزاد، خب همین که مسته‌درسید، پس از ابلاغ قانون تحلیف دوسته‌عه محدود منطق آزاد، ما در واقع جلسه‌ی هیعدی تبدیل منطق آزاد رو ابتدای گورد چهار در منطقه آغاز کردیم که مستعمرات علاوه شورا هم میاد در این جلسه رسیدگی میشه و یک سری موضوعات در خصوص بافری روستاها بود که نیاز بود یه مشخصی داشته باشیم تا حالت مختلفی اتفاق میشد امروز دعوت کردیم از جناب آقای مهندس سارانی و مختلف کد امور شهری استانداری و جناب آقای یمارتری مدیر مختلف محترم اداره استان که امروز در خدمتتون باشیم که ما توضیحاتش رو در خصوص مسائل قانونی که موجود دارن و عزیزم بدن و اگر دوستانم هم داشته داشتی باشن در خدمت دوستان باشن در ابتدای یعنیسی من دعوت می کنم خدمت فرماندار محترمه که حسان چاور باشیم تا با بدیانات خود شما رو مستقید خواهیش می کنم بدیتشون تشریف فرمان بشن صلابات بودنی رو خر بکنم الله چقدر وقت ما بازه، نباز برو تو بها را را نه و رحمت الرحمن الرحیم با سلام و فرود برواه متحرم منور شهیدان رود ملک کفتی و تابناک مهماره که میره انقلاق حضرت سر و شریم و آرزوی صحت سلام و دور, دور با برای مقام محظم و محظم درحبری مدد در مول عالی. عرض سلام و ادب و احترام و همین طلبی که ایام الله دههی مبارکه پرد و چهل دوم دومین بحار آزادی انقلاب و فورمند شامی رو محظر همه شما حاضری در این گردت بحران و بردران کرام قردر دارن و همینطور هم میلاد با سعادت حضرت بی بی کادمی زهرات آنمال راهی ها و مقام و منزلت زن و مادر رو هم و همینطور بیلاد سلالی پاکر شدرت امام فحمد راهی رو تبیه کرد می کنم به همه شما حزیزا خوب تقدیر رو تشکر می کنم و من هم خیر مبدو گیگم و حضور سروران عزیزی که در این جنب سمیمی شرف و حضور دارم برای دردشمند من جنب, جنب, جنب روی بیرامل محترمه تازمان منطقه آزاد، معاون محترمیشون، جنبای مهندس شاکردگی و حضور منترم حییت مدیره، مدیران محترمه، کل ستادی و استانداری همکاران انگران و قد بفنده، جنبای مهندس آرانی بوده، کل محترم شهری و جنبای مهندس جمازدگی بوده، کل محترم مستایی، بخشتار محترم، شما شوراها و دهیاران و همه همکاران عزیزی که در این جلس شرف دور دارن، این vantagens ریوی گرانداگیه هر شب بر ما هست. خب، در چنین ایامی و در چنین سالگردی مبعودیه چنین دلتاتی خود معنای دیگری دارد و ما هم خوشحال و فرصت که امروز در خدمت شما و آذداد سروران گرام‌قدر هستیم. اما ناگزیریم که راهایت مسائل بهداشتی و پروتکل‌های ویژه این ایام را ببینیم. البته خدمت شما که ما را هم راهایت میکنیم و به صورت بسار مطالیمی رو خدمت شما عزیزا هم استروران گنام قدر خودم داشته باشیم. خب ببینید برادر رو بخاهران گنامی، ما در این چهل و که وارد چهل و سه ساله، سب، سال پیروژه قلاب شکرمند اسلامی میشیم، قطعاً در این سالها خدمات و برکات و نتائج و دست, دست آورده های مختلف شاهد بودیم تا آن هم مشکلاتی رو هم ناگزیر داشتیم و داریم این همون برمایشست که مقام باظلحداری می فرمایند کار را به هنوز فاصله داریم اما راه های بسیار بزرگی رو رفتیم انجی بسیار بزرگی رو طی کردیم ام از استقلال در همه سهم ها چه سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و همه اون‌ها. و اون چیزی که مربوط به این در هست و قطعا باید اون رو خیلی تاکید هم بکنیم هم مردم سالاری دینی و دموکراسی که نتیجه اون پارلمان محلی و شوراهایی است که به در حوزه روستایی و شهری به برکت نظام جمهوری اسلامی و چندین بند از قانون اساسی و مواد قانون اساسی مربوط به این موضوع اجرایی و عملیات شد در نظام جمهوری اسلامی و روز شماها و امثال شما برادران و خواهران دیگری که در این دلسه نیستند و در جای دیگری خطباً میکنند در گذشته چنیم چیزی و چنیم شرایطی اصلا فراهم نبود شاید اگر هم بود به نوع دیگری بود ماها و شماها نبودیم پردن دوری این میل و این جلزات نه بودم نه شمایی بودیم کسانی بودم که ارحال بابستهی به رژیم و نهایتم شرایط خاص خودشو داشت اما امرود از و تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی با رأی مستقیم و مستقیم مردم وارد صحنه میشن از مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و همینطور شوراهای اسلامی روستایی و شهری و شوراهای فرادستی و خب بنا همه نتیجه یک از نتایج و برکات نظام جمهوری اسلامی است که ما باید هم دلداران باشیم و هم از این فرصت و ظرفیت استفاده بکنیم و شکر اون هم این هست که خدمت کنیم فرصتی است که برای من های نوعیی به وجود آمده چه قرمان شوراید، دهیار، مدیر، رئیس، فرمودار، مدیر رئیس فرمودار مدیر مدیر کل هممون همون هم بلا استثنان است که در این نظام مقدس به وجود آمده و شکر این نعمت هم خدمت من شما به مردم هر کدوم در پیده و ضایب زادی خودمون البته در این جلسه مطرح بشه خیلی از مشکلات هم وجود داره و بله همینطوره خیلی از مشکلات هم هست اما خیلی از مشکلات هم از پیشوا مردم و پیشوا من شما برداشته شده. خیلی از مشکلات هم حتما برنامهدی شده از طرف دیگر هم می دانیم در چه شرایطی قرار داریم و امورود هم اون شرایط سخت و سنگین جنگ اقتصادی و دلیم های که وجود داره. الارت همه اینها فرحال نظام مقدس جمعه اسلامی توانسته هم در درون و هم در بیرون. همان فرمایشی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن که ما انقلابمون صادر خواهیم کرد، امروز رو در سراسر عالم هر جا پرچمی، بیرقی، مقابله با ظلمی وجود داره، نشعت گرفته یز یعنی حرکت نظام مقدس و انقلاب شکوهمند اسلامی است. و در داخل کشور هم درست مشکلات هم وجود داره، اما، حس می خود ما این یه روز فقط می میشد و ما باید اجرایی می کردیم از رأس همان تا ما تقدیر می کنیم بسیاری از مسائل رو برای حتی دنیای پیرامونی ما نه تنها در داخل بلکه به یک برای دیگران و نمونهش خود شما در روستاها و در مجمعی که داریم خدمت خب این کلیات که برای هر حال انجام و نهایتاً متالبی دیگری هم از دوران صورت تخصصی مطرح با انکار کو با قدر در جلسه وازمیه اونها رو باید پیگیری بکنیم اما نکته دومی که وجود داره پیرامون مبعثی است که امروز حالا بالا جلسه به خاطر همین موضوع برگزار شد خب ما خوشحالیم افتخار میکنیم فرصتیم با که انجام شد در سطح ملی در سطح دوستان استاد اوستانی و و در حوزه شهرستانی هم با این مدیران که و که به در اوده ی از خدمت کاری ما بود اتفاقاتی افتاد که امروز بگی منطقه آزاد اوده ی سازندگی اون دیگه اردوهای مردم بود های دیرینه همگان و گذشتهغانی بود که امروز نیستن یا در جامعه ما نیستن یا مسئولیت ندارن این اتفاقی افتاد و از این اتفاق برکات و نصیب هم شهر و شهروندان و هم روستاها به اوده ترزمینی بشود خوب این اتفاق هم افتاد، با پیگیری دوستان داشتم. و انهایتاً حوزه سرتمینی منطقه آزاد، از اون هزار هکتار به اشارده هزار هکتار و حال اضافه شد. هم در حوزه خشکی و دریا و مرد و همه این هایی که برای شما بهترند من میدانید رو باقید. خب، از این فرصت و ذرفیت، قطعاً باید من و شما با روی مثبتی که در برادر دکتر کردی و همکارانشون رو داره و همینطور در حوضه سازمانی و توجویی که قسندار محترم دارن و ماها هم در این مجموعه باید این ضرپیت استفاده کنیم باید این ضرپیت استفاده بشه باید این ضرپیت متبربر بشه باید این ضرپیت به عینیت برسه که نهایتا روستای ما و مجموعهی که تحت برحال حال خدمتش و حوضه سرزگیری تحت این براکات استفاده بود اما در خلال این مبالد، مباحث مبوالد قانونی هم وجود داره که قطعا هماهنگی و همراهی بین سازمانی یعنی نهاد حکومتی و ناگهان مجموعه نهاد حکومتی که میگم وقتی به مال دولت وزارت کشور، استاندار و فرمانداری به همین سبب و منطقه به همین همینطور در کنار هم اگر این تعاملات و همراهی‌ها و همراهی ها هم نباشد کار به پیش نخواهد رفت. قطعا شما در جای دیگری دیدید اگر تا نمی بود اگر ارچه و خدمتشم همراهی و همگامی نمی خیلی از مشکلات و معضلات بیشتر از اینهایی بود که الان بود. امروز همین درسه برگزار شده قرطن همینه، هم آشنایی با قوانین و وظائف و مقررات خود شوراها و دهیاران عزیز و هم با توجه شرایط فیلی چه باید کرد که بهتر از این ظرفیت و از این فرتد و از این شرایطی که فراهم شده استفاده بکنیم که در آیندهی ای نه نه روستاهای فاقد امکاناتی باشد، نه تفاوت بین شمال شهر و جنوب شهری باشد، نه مشکلات دیگری که متأسفانه سالهای سال انباشته شده. و امروز بلوان میراث نصیب من و شما شده و مردم را هم میبینیم اینگونه گونه دو مشکلاتن و در سطح ملی هم خدمات بینظیر و بی بی‌بدیل در اونده شهرستان و در این منطقه انجام گرفته، اما وقتی میبینیم نیازها و نیازمندی مردم را همیشه از آخر اولی. یک از همین بوده. اگر اون روز اتفاق می افتاد، به اعتاد بعد قطتم این مشکلات رو نداشتیم و این تفاوت معنادار به وجود نمی آمد چه فسا منطقه آزار در اون روزی که اون شرایط بود قوانین و خودش داشت و در اون محدوود ای که باید خودش با میکرد می میکرد پیش از اون قانون به جاده نمیداد. ولی امروز بر حال حمل لا شرایط خوب پیش آم که هم دوستان ما قطتنبار رویکرد مثبتی که دارندن و خواهم داشت و هم دربیتی که وجود داره و استفاده از این دیات رو در حوزه شهری و روستایی دوستان عزیز و همکاران عزیز باید بیشتر از دور بهره ببرن و هم تعامل و همدلی و همراهی و همگامی که قطعاً وجود داشته قطعاً بعد از این هم همین بونو خواهد بود و وجود خواهد داشت هیچ تفاوتی بین مجموعه ما و منطقه آزاد وجود ندارد ما همه سربازان نظامی همه در این مجموعه سر سفره با نظام و شهدا و امام و انقلاب نشستیم ضروییت و فرصت برای ما به وجود آمده که ناحط ما خدمت کنیم شما هم همین خوه که توسط خود مردم انتخاب شدید برای مردم خدمت کنید و برای خودتون کار بکنید و خدمت کنید. این در این فرصت باقی مانده البته ما با شناط رو تاثیر بکنیم و ض رو تبریک بکنیم از آنجاهایی نیاز به همانگی داره همانگی ریشتری شکل بگیره که همینطور خواهد بود شما آم این فرصت رو درویت به نفر تا حالا اگر اگر کم بود امکانات داشتید، خطا کم بوده، اعتبارات داشتید، خطا. مشکلاتی وجود داشته، از این فرصت رو در بیات بود بهتره بود هم با علم و مطالعه و توان و تلاش و هم با جدیت و پشتکاری توانی شما رو بهتر خدمت شما که انجام بدیم. راستن حتما دوستان امروز توضیح خواهند داد که به اخلاقی های داخلی اختیاراتی توی مجموعه وجود داره و نهایتاً شما بشید واقع بشید که بتونید کار رو انجام بدید. نحوه خدمات رسانی که حتماً در روی بودی محترم و دوستان توضیح میدم خدمات رسانی که به این روستاها به راه روستاهایی که تحت حوزه تنظیم منطقه آزاد هستند چگونه خواهد بود؟ شما چگونه باید راهبرداری بکنیم؟ قطعاً مسئولین مربوطه ای که در این زمینه از شما خدمت شما فعالیت میکنن با مشرفت شده کار و تمام با ها مطمئن با تدوین بودجه به ها همین از شما خدمت شما مشکلاتی که وجود داره در روستایی و ناقص وجایگاه نیرویار بشه اونها و همین طور فعالیت سازمانی که انجام در مجمعی که وجود داشت خوب من بیش از یک مستنده شما دوستان وارد نمیشم خواستم از این با هم حال ایام الله دهه مبارکه بچ بود برنامه‌های داشتیم امروز ما باید می‌رفتیم در کلمان برنامه که برنامه‌ریزی شده بود در قرن که برای پروژه های ابتدایی را انجام بدیم وقتی دکتر دعوت کردند و دوستانم تشریف آوردن و خود وظیفه داشتید که در دا این حضور پیدا بکنیم هم به لح تبریکی نجام و خستهباشید و خدا قوبت گفتن و هم در خدمت شما عزیزان که بخش مهمی از جامعه چه خدمت شما اسلامی و ایرانی و حوزه شهرستان جابهار هست و هم شالله خدماتی که بعد از این انجام خواهد گرفت و نهایتا روستایان عزیز ما و اون نزیانی که بر حال در او مجموعه شماها را انتخاب کردند به عنوان متولیان ابر، روستایی خودتون و ماههایی هم که به هر حال رسانی بیشتری بکنیم و کارانه از عزیزم که وقت گذاشتید بودید كل محترم سپردن آمدن بر همین موضوعات و از این در پیات و فرصت طلایی و استثنایی نهایت استفاده رو شماها ببرید البته با اجراق خدمت و مسیر قانون و چارچوب قانونی خودش و با رعایت همه حد و حدودهایی که در قانون مشخص شده با خانم ادریفه آرسن فدریک حضور پیدا بکنم همخسته باشید بگم هم خداحافظ بگم برادران و برادران دکتر کردی مدیران محترم داشبوردان با شما عزیزان شورای روستایی و دهیالان عزیز خواهر و برادر مجدد هم تبریک ایام رو دارم خدمت شما و هم آرزوی توپیق و عزت و سربلندی برای و مقدس جمهوری اسلامی و هم خدمت بیشتر شما عزیزان به مردم عزیز و روستایان عزیز به مجمع های فرصت و دربیات بی به بی و, نیبتی و نیبتی. استفاده ببرم به برکات و محمد و سلام بکرز من هم ایام شکومند پیروزی انقلاب و یادآوری افتخاراتی رو که ریشه در اعتقاد و بنیانهای فرهنگی و تاریخی همه ایگانیان داره در آستانه چهل و منس... چهل و سه بومیت ساله که انقلاب هستیم و در این سالها هم اقدامات و خدمات هرزشمندی رو می برای سرزمین برو افتخار و پرسروت ایران اسلامی و مناطق خصوصا سیستان و بلوچستان و سایر مناطق ارائه کرده که انشالله شب گذار تدمات نظام باشه. تبیه کرزی کنم بلادت با سعادت حضرت زده دو به نمی اکرم رو خدمت همه مادران خواهران و زنان جمعه خیلی مردم خدمت همه شما بزرگواران از شوراهای روستاها ورد و که این روز افتخار داریم به خدمت عزیزان باشیم فرمان عزیز موقات بسیار مهمی رو هم اشاره داشتن جنبای چاکرزه عضو محترم دیعتم آقای سارانی رو همه دوستان مدیر کل امور شهری معرف کردند توی این جلسه ولی شهر حضورشون در این جلسه مدیر کل شهری نیست در جلسه نماینده مدیران آمل هستند در حیرت تطبیق مسابعات شوراها به نمایندگی از تشکیلات استانداری جناب جنب آقای جمال زهیر و ماهیم خدمتشون هسته و هر دو از خوبان و متخصصین این وضعه چه در مسائل شنگری چه در مسائل حوزه احضامانی که در باید انجام می شده و باید بشود و قوانین مقررات هستن همونطور که دوستان همیشه هایی کردن همه های داره و همه جنبای فهمون داد این جلسه شاید در نزدیک به چند روز دیگه میشه یک سال هست تصدیب بانون قصه محدوده و ضرورت داشت که در ارتباط با تامولات و همه ها، همه فکری ها و از همه مهمتر همعزایی هایی که میتوانیم در قوضه ارائه خدمت مناسب به مردم داشته باشیم خدمت شما اسیزم باشیم من سین برنابار نگاه می کردم. کوی دوستان فقط سخنرانی دیدن این از زن فقط بشنبن و برن فکر کنم یه تغییری در جنابای سارانی و جنابای حقیقتاً توی برنامه بدید و حتما از عزیزان دهیاران شورای اعضای شورا دردقه ها مسائل و موضوعاتشون و سوالاتشون رو بتونم مطرم بکنم،, بکنم صحبت‌هاشون رو بشنبید و در برنامه ریزیخ‌های آتی حتماً بعد به نظر بگیرم آنچه که به عنوان خروجی این جلسه مرد انتظار هست فهم مشترک و یگانه ای از یک ظرفیت قانونی است که همه ما مکلپی بهش پایبند باشیم و اجرا کنیم و هلقدر که نگاه همون یکسانتر باشه فضا همون به هم نزدیکتر باشه حتما نتیجه و خروجی که قطعا خدمت مناسب به مردم هست حاصل خواهد شد این چیزی است که ما انتظار داریم از این جلسه این خلوچی داشته باشند. اما از این فرصت استفاده می کنم هم یک فلسفه رو در ارتباط با چرایی این قانون و دلائمی به مدنظر بوده چه در دولت که پیگیری این موضوع رو داشته و چه در حوزه مجلس عنوان قانونگزار که این قانون رو تسبیل کرده. بعدی نیستی که به اسناد تاریخی هم برگردیم. ما در طول تاریخ عزیزان زمین تاریخ می دونن بهتر از من یکی از نقاط بسیار بسیار استراتژیک در دنیا محدوده من کوران و سواهر دریای عمومان و بروشستان بوده. آثار مکتوبی که وجود داره حالا قاهم روایت هایی از گذر لشکرها و حال مسیرهای ارتباطی و corridors ها زیاد دیدیم در طول تاریخ اما اسناد مکتوبی که به عنوان یک مسیر دارای توجیه اقتصادی و دارای زرفیت و تاسیساتی که می شوند بر پایه‌ی برنامه‌ریزی و سلسله کرد بر می‌گرده به حدود تقریباً 100 سال قبل و بنایی رو در این منطقه گذاشتن که تبدیل بشه به مرکز تجارت شرق و قرد بناهی رو گذاشتن در این منطقه که اتباطات کوریدورهای شمال رجموع و شرق و قرد و بازارهای مهم دنیا رو به هم به از اینجا و هم متصل کرد خب ارضامات و ضرورتهایی رو هم این ذرفیت داشته رسیدن به یه مرکز تجارت بینورمه در مرکز اکتصال شرق و غرب یک امزامات و ضرورتکار و زیرساخت‌هایی رو میخواسته که خود در دوره های مختلف اقاماتی انجام شده اما تقریبا بیش از یک دهیل قبل نگاه تیزبین و وسیر مقام معظم رهبری توجهی رو در دولت و در نظام میدهد به گنج پنهانی در تکریف میکنه به همه سربازان ها و دولت و مجلس و نیروهای ستاد نیروهای م... مسلح و همه کسانی که در این حلقه نظام بازی میکنند که باید اقداماتی رو در ارتباط با شکوفایی و آشکارسازی جت انجام بدن. همه شما تمایز میدونید البته رعایت فرایند توسعه است. <تصفيق> توسعه یک زایش هست، یک تولد هست و حتما هم درد و درحال حزینه و خون و خونجزی هم دارد حتما هم اشکالاتی در مسیر تحباق این توسعه وجود دارد هر کجای دنیا که بوده این مختصر بیران مختصر چاوهار مختصر منطقه نیست در هر کجای دنیا که توسعه اتفاق افتاده توسع حتما آثار مثبت داشته آثار منفی و اثرات هم داشته اما کسانی موفق بودن که تونستن با فهم مناسب با برنامه کسی و سرسرگزاری درست هزینه های این توسع رو به حد اقل و منافع اون رو حد اکثری بکنن تالیف و برداشت های بسیار متفاوتی هم از توسعه وجود داره و در ارتباط با موفقیت های اونها هم یک تیف وجود داره یعنی سفرو یک منچه با یک توسعه موفق بوده یا یک توسعه ناموفق بوده سفرو یک نیست بلکه تیف نیست میزان موفقیت و میزان تحقق برنامه ها و اهداف توسعه یک اصل اساسی بستگی داره و اون میزان مشارکت و همراهی زینفان توسعه است. اصلی تاثیر زینفان بر هم مردم هستند. در هر منطقه جوامع محلی اصلی ترین و مهمترین زینفان و کنشگران فراید توسعه هستند. در اوتارات و اساس توسعه ای وقتی که در ارتباط با موفقیت ها و عدم موفقیت های توانانت های توسعه بحث میشه در هر کجایی که توسعه با جامعه محلی آمیخته شده همراه شده سهم از و سهم داده اونجا توسعه بسیار بسیار نتایج رضایت بخش و مناسب هر یا جاهایی داده شده که توسعه به عنوان کاملاً کاملا برونزا و از بیرون برنابوزی و هدایت شده. همه شما ها تجربه های کچیک و بزرگی رو در منطقه دیدید. یک کارخونه، یک واحد تولیدی، یک صنعت وقتی در یه منطقه این حضور پیدا میکنه و همه عوامل اون برمان ریزای اون سیاست بزارای اون بیروهای انسانیش و منافع اون به خارج از منطقه منتقل میشه، وقت مردم اون منطقه آسال و دلخوشی های توسه رو نمیتونن حس بکنن ببینن. و همیشه یک دیوار بلندی بین توسعه و بین جامعه محلی موجود داره. در همین ایران تجربیات خیلی زیادی وجود دارن از یک کارخونه و از واحد تولیدی در شهر کچید درخوره تا مقیاس های بزرگ و سایت های سنتی بزرگی که اون رو شما همه بیتر از من واقف هستید و تجربیاتشون رو هم میدونید چین نگید و هم در اصنات مورد برگسی برار شاید سالها قبل خیلی دور نه 5-6 سال قبل به اون برتر برای بنده هم عنوان یک قومی سیستان و لوچستان عنوان یک قومی که گهگاهی به چابه های این سفر می‌کردم فرصفه‌ی منطقازات و داروته‌ی منطقازات و مردمانش یک مسئله‌ی خیلی پرچالشی بود و همیشه من هم جز و در واقع سوال کنندگان رابطه‌ی یک سازمان توسعی با جامعه محلی بودم. توفیقی رو خداوند نصیبم کرد و فرصتی دست داد تا عنوان فرزند این سرزمین و این منطقه توفیق سروازی نظام رو در چابهالی که امروز پیشانی و ویترین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست خدمت گذار باشن همین دردقه و سآل در این سالها محور بسیاری از برنامه های من بوده. حتما ایرادات و انتقادات و نقاط بسیار زیادی وجود داره که پای صحبت هر کدوم از شماها ها بشنر ساعت‌ها در اعتباد با این موضوعات حرف دادیم و حتما لخش هم درست هست و علاقه مندم هستم که بشنرم و کمک بکنیم اما روح حاکم و برنامه ها و سیاست هایی که در این ساعتها دنبال کردیم آشتی بین توسعه و جوامعه محلی بوده همه برنامه ها و اقداماتی رو هم که با سند میتونیم الان مستندن بررسی بکنیم. سمت و و سوی اون برقراری این ارتباط و اصلاح این رابطه بوده رابطه ای که من خودم هم وقتی که خارج از این مجموعه بودم برای آن بوده نه بوده و مسئله بوده چند اقدام مهم رو دنبال کردیم یکی که حال این سازمان توسعی بر اساس مهموریتهایی که تعریف شده بخش عمده ای از مأموریتش رو شاید فراموش کرده شاید علاقه مجال و فرصتی نبوده و اون هم در بند ماده یک قانون چیگونه گیرداره مناطق آزاد اولین و بگم کنم شاید دومین اهدافی که تعریف کرده عمران و آبادانی منطقه و محرومیت صدایی بوده و در ادامهش کمک به مناطق همجوار و خیلی برای من جالب بود که در یه ما خودمون دوچاریم اصلا بودیم ممنوعیت هزینه کرد در مناطق همجوار داشتیم و در حالی که در قانون ما سراحت داره که شما باید به مناطق همجوار کمک بکنید اینها اون فراز و فرود ها و تغییر مسیر است که به دلیل نداشتن یک برنامه مشخص و یک مسیر روشنی برای ارائه خدمت در راستای معموریت اتفاق افتاده بود. تلاش کردیم همه اینها اصلاحاف بشه. دو تا کار رو که فکر می‌کردم ضروری پس در این مسیر دنبال کردیم. اول اینکه بر حال به عنوان کمتی و مناطل هم و بحث عمران آادانی منطقه دراعتقالب یک برنامه روشنی که تواند در یک دوره مشخص کوتاه، یک عقب ماندگی و قفلت و، کمکاری تاریخی رو جبران بکنه دوستان عزیز ما از روستای تیز جا حضور دارن مصداق بارز نموفقیت ما روستای تیز بوده 25 سالین در داخل منطقه آزاد قرار داشته و کمترین خدمت و اقتدایی ترین هم این مردم ازشون دریق شده بود روزگار سختی هم گذرمونیم در این دوست سال گذشته برای این که بتوانیم با مردم تیز آشتی کنیم مفقق. از روزهای اول و جلسات اولی که به جنجال و به دعوا و به سرصدای های کشیم تا امروزی که شبانه من پیام دارم از مردم تیز نه پیام محبت آمیز و تشکر رویم حداقل پیگیری عمورشون حداقل اینکه که پذیرفتم سه میدن این فرایت دارم این مهمترین خواسته من از این مسیر بوده و تجربه موفقی بود برای این که بتوانیم مردم رو بر مدار مسیر توسعه قرار بدیم. وقتی سوال می کنن، مطالبه گری می کنن، درخواست می کنن، دغدغه دارن و برای تحقق اون دغدغه ها هم تلاش می کنن. خصوصی که 25 سال عمر منطقه رو قلب داریم و 40 رو دو سال از عمر اطلاع میگذره و در دل منطقه آزاد هنوز آب شرب اصلی ترین مسئلش خب این به هیچ عنوان از من مدیر پذیرفته نیست. از هیچ مسئولی پذیرفته نیست. باید در اینها برمانوزی میشد، کار میشد، تلاش میشد و رفع موانه تجربه روستای تیس تجربه ارزشمنی بود که من فکر میکنم کار رو برای دوسته های جدیدی که به محطولله منطقه اضافه شدن بسیار بسیار سهل رو و نان ت کردنی از ما همبدان ما در دوستار تی هزینه هایی پرداخت کردن تجربه هایی رو انجام دادن. حتما اون تجربه ها میتونه برای شما موثر و مفید باشه به یکیش اشاره میکنم که خیلی خیلی مهم هست و نظر من اصلی ترین است که به شما ازش، دوچار ممکنه که پشیمانی بشه. در همین فضای گرگومیشی که تکلیف روستا روشن نبود. یه روز به نفش بود که با سرزمین اصلی باشد. یه روز به نفش این بود که با منطقه آزاد باشه. یه روز به نفش بود که برحال رابطهش رو به گونه ای با حسنانداری تنظیم کنه. یه روز لازم بود که با مدیران منطقه در تحامل باشه. فرصت و فضایی پیش اومد که یک روستای با ارزش، با یک تاریخ گران سنگ با یک قدمتی که هنوز رگاه های از افتخار در این روستا رو ما میبینیم این که میگم رگاه های گوچیکی بیدلیل در این روستا افتاده و این بسیار بسیار که، و ای که ممکنه بود منتظر هر کدوم از روستاهایت در این فضای از عزیزان ما مردم به دلیل اینکه بلا تکلیف بودند نمی‌دونستند که قانون چه رفتاری رو در ارتباط با اصلی‌ترین و مهم‌ترین دقلقه اونها یعنی حسول و قوائل مالکیت باشون خواهد کرد شروع کردن به زمین فروشی هایی و و حال آمدن مجموع ها و رفتار ها و اتفاقاتی که امروز به عنوان محضر مردم تیسه روسته های ما شما همی میدونین در مناطق ما روسته حیات ندارن این از اون مهرانیت و از اون اعتماد و از اون ثروت و سرمایه اجتماعی روسته هاست حیات ندارن از اون احساس آرامش و امنیت که در روسته وجود داشته اما امروز دیگه روسته تیسه میش مردم روستای کیز در کیز قریبه هستند بسیاری از اون ارزش هایی که در این روستا وجود داشته شاید آن سه سالهای ماها که خیلی ازش رو می‌بینن جوان هستند هم بیاد دارید که در یک دهه گذشته دو دهه گذشته سبک و سیاق و زندگی در روستای کیز چی بوده و امروز چی بست؟ این سرنوشتی است که متباید منتظر همه این سی و پنج روستا و اون 64 و که ما تعهد داریم حال بهشون خدمت جسرم بکنیم و منتظرش هست و شما میتونید با دیدن این آینه تصمیم بگیرید که چه شیوه این رو دنبال بکنیم. من تو همین فضل مجازی چند روز پیش بیرک کانال این کانالای چاواری که شروع شده این قصه نمیدونم استشهاد این که اینشون توان جاله بود برای من یه خاشی اومده در مثلا این ها و بعد مثلا دارن شوراق و نمیدونم پاسگاه و نمیدونم کی و کی دارن تایید میکنن که ایشون اصالتاً اومی اینجاست. خیلی خوبه شمال. که یه خاشی، یه زالدانی، یه ایران شهنی، یه سربازی بیاد اینجا و در این چرخ قرار بگیره. حتما این فرصت داراش فراهم خواهد شد. اما امتیازات و حقوقی که برای شهروندان، برای ساکنین، برای کسانی که آبا اجدادی اینجا بودند نباید توسط یک ادعادم فرصت طلب و سوچون که پا روی اصول میذارن از اعتماد و از اعتقادات شماست رو استفاده میکنند مسیری مسیلی بشود که فردا منافع, منافع حد شما دوچار آسید بشه امروز که روستای به این شکل و شمایل در آورده کیاستی میبینه؟ مردم و کسانی که سالهایی جزه نمی کردن سرانه هاشون بسیار پایینه زیر ساخت هاشون پاسخون نیست از برم گرفته تا معابرش گرفته تا نیندونم آبش گرفته و همه بزوش مسئله است چرا؟ چون کسی که اومدم در تصرف کرده به ناچیزی اومده متصرف شده و حزینه حضورش رو در اونجا نمپرداخ این رفتار میتونه در مورد رسته های دیگه هم تکرار بشه و نتیجه مشابهه این بود داشته باشه یا میتواند با مشارکت و همحصایی و براموریزی مشخص نتیجه این متفاوت از این داشته باشه نتیجه ای که ما این روز داریم دنبال می‌کنیم و به سختی داریم بهش میرسیم این به نظرم دردقی من مکره مهمی است، دوستان من با خدمت شما عنوانه یک شهروند عرض کنم اجازه ندهید که ساختار و قالب و بوم شما تغییر بکنه برای فروختن زمینی به قیمتی ناچیز که اثرش در زندگی مردم مردمان گوستا و اندازه سالی هم نخواهد بود هستند کسانی که فروختن سال اما از وقت در دقیقه شما مهمه میده ما اگر اینها رو از ما میگیرن اینا رو منطقه آزاد میبرز منطقه آزاد اومده زمین رو همه رو ببرو و بفروش و مالک همه شون بشه اینچنین نگاهی وجود ندارد اینچنین قاعده و ظابطهی هم وجود ندارد برای همین هم هست که ما در یه تعمل حد نماینده مدیر در حیعت تطویق مسبباتی شما مدیر استانداری هست معناه منفهومش اینه که هیچ قالبی تغییر نکرده یک ظرفیت قانونی فراهم شده همه ما باید در کنار هم دیگر تلاش بکنیم تا از این ظرفیت قانونی بهرهبرداری بهره برداری و استفاده بکنیم برای که از این ظرفیت هم درست استفاده بکنیم باید اشراف کاملی به قوانین و مقررات و ظرفیت های این قانون داشته باشیم. اعتقاد من این هست که این قانون بسیار قانون مترقیه هست. اگر اشکالات و انتقادات ما بهش باردیم کنیم، دلیلش این هست که ما این قانون رو درست نفهمیدیم و درست اجرا نکردیم و از همه زرفیتاش با نگاه مثبت و خدم ادرسانی به مردم استفاده نکردیم. اگر امروز ما با بپذیریم که در یک قاعده همگراه و همعزایی از همه زرفیتهای این قانون و هایی که انجام داده با نیت نگاه و رویکرد خدمت‌رسانی به مردم استفاده بکنیم بدون تردید شما در آینده خیلی نزدیک شاهد یک تغییر و یک تفاوت جدی در حداقل کیفیت و زیرساخت زندگی و زیست در این منطقه خواهید داشت از یک سال گذشته دوستان ما زحمات زیادی رو کشیدن در تبین قوانین و مقررات در هایی که باید انجام بشه، نحش بردار هایی که صورت می گرفته. پیشبینی دستور امال ها و زبابتی که باید انجام می شده، اقدامات رو شروع کردن، کارهایی رو انجام دادن، در جاهای خلاق قانونی داریم، قبلا همچین موضوع رو مواجه نبودیم. خدایمون دارم فکر میکنم، مشورت میکنم همین الان که خدمت شما هستیم در دویر خانه شورایی منت و در ارتباط با باگذاری عراضی شیوه نامه رو ما در روستای کیست تنظیم کردیم و همین الان در حال بحث هست و تعدادی از همکارای ما و حتی فکر میکنم نماینده ای از شورای کیست و دهیار هم دهیار رو میبینم اینجا شما اونجا هستید بزوری دارن و اونجا دارن این موضوع رو دنبال میکنن همه اون آنچه آن چرا که شما به عنوان مسئله دارید باید ما انکس بکنید، کارشناسی بکنید، تطبیق با قواندین داده بشه بررسی بشه و از همه ذرکت قانونی استفاده بشه این مسئلیست که من انتظار دارم انشاءالله همکاران مادر سازمان در تعامل کامل و در مشارکت و همحصایی با دستگاه های سرزمین هستی این خانم رو بخش دار اینجوری نکنید. یه سروتی برای این منطبه. از تمام ظرفتیشون. جناب فرماندار که خب اعلان کردم در همین جلسه که چه نگاه و چه روی کردی دارن. آیا استاندار رو نگاهش رو شما همه میدونید. مدیران سازمان رو هم میدونید. بنده هم هم رو خیلی شفاف و سریع الان در این جلسه عرض کردم. از این امکان و فرصت و ضرقیت استفاده بکنیم تا بتونیم انشاءالله مسیری رو تعریف بکنیم که این مسیر حداقل هزینه‌ها ها رو از توصیهی که در اتفاق می برای مردم این منطقه ایجاد بکنیم بخواهیم نخواهیم ما بر مسیر و مدار توسعه هستیم اراده بینون ملنگی است این که اینجا یک مرکز بزرگ اقتصادی بشود تاکید و تکلیف راهبری بدین است که این گنج پنهان آشکار بشود این ظرفیت ملی در اقتصاد ایران نقش بپذیرد و در اقتصاد منطقه و بین الملل هم بازیگر اصلی باشد اما ما باید خودمون رو ماهیا بکنیم برای حضور در این و سهم خواستن و سهم پذیری درین فراین دوستان اینها رو برای ثبت در تاریخ می میکنم مقاومت کردن در مقابل توسعه فقط ما رو لگرمال میکند و نابود میکند محیا شدن برنامه مهور و با مهارت و توانمندی در مسیر توسعه است که های توسر و بر های ما خواهد آورد. بنابراین برای هر طول ها باید در داشته باشیم، باید حتما با یک نگاه و کردی که ما در این مسیر و در این چتری که به گردش در اومده ما حتت هست جای داریم، حقی داریم و باید در جای مناسب خودمون با ظرفیت و توان مناسب خودمون قرار بگیریم. این به عنوان یک مأموریت تسلی امروز شورای دیال هست، انتظار و خواسته بنده است شما عزیزان هست مردم باید آگاه بشوند مردم باید آشنا بشوند مردم باید بدانند که قرار است در چابهار ها و در این سرزمین چه اتفاقاتی بیفته و خودشون رو ماحیار کنند برای حضور در این اتفاقات حتماً الزاماتی میخواد حتما آموزش و هست سازمان همین رو فهمیده درک کرده و شروع کرده در دو سال گذشته قریب به دویس کلاس درس در های مختلف شروع شده، مجموعه شبان روزی، مجموعه مهارت آموزی، مجموعه های توان منسازی، انموی از که من نمیخوا امروز گزارش عمل ت بدم. در حوزه توان منسازی بسیار بسیار برنامه های مفصلی رو پیش پیشبیری کرده بخشش اجرا شده و بخشش تبدیل به سند مسیوع و مور شده که با انجام بشه. در حوزه بهداشت میدانید که ما امروز بیشتر از بهداشت، و جدیتر از وزارت بهداشت، دنبال بیمارستان مانند شکل تاریخ چابهار هست. تقریباً هفته‌ای نیست، ده روزی نیست که من یا امکان‌کاری را جهت بیمارستان چابهار نداشته باشم. در روز نشاط اجتماعی نیم در مجموعاتی که هر دفعه دوستان از بیستان بیشتر جلوی اما واقعیت این هست که ما توان قطع خوبی به همه رو نداریم. به دریمی که منابع ما محدود هستند. به دلیلی که من به برنامه‌ریزی برای انتحقاق بین موضوع، رسیدن به موضوعات هستیم. و این برنامه‌ریزی، و این اولویت بندی کردن و این اولویت دادن به مسیرها فقط در گروه این هست که همکاری و مشارکت جدی و دقیقی از طرف جوامع محلی در کنزیم برنامه ها صورت بگیره. این فرصت امروز در دوستاها در اختیار و اختیار است. دوستان شورا می توانند، میتوانند، موظفند، متعهدند، تکلیف شرعی و قانونی دارند که برای آینده اون روستا و مردمانش یک آگاهی بدن دو مردم رو متناسب با اون اتفاقی که داره محیا بکنن که از این نعمت و از این اتفاقی که داره نفته رو بهتونن ببینن و استفاده بکنن. و میکنم می‌کنم آقای فرماندار هم تأکید کردند که ها رو رعایت بکنیم اما من تکلیف بر من بود که زودتر خیلی زودتر از این خاطر متأسفم فرصت هم دست نداده بود شاید بعضی از عزیزان رو هر جلسات مختلفی پرکنده با هم گفتگو گفتی داشتیم اما این نگاه برونکرد سازمان رو لازم دونستم که بیشتر بازوکنم هم همکاران من در مجموع مکلف و معذف به رعایتون هستند. هم استدعا و خواهش من از همه شما عزیزان این هست که در تحقق این مسیر کمک بکنید. آنچه که عرض کردم اعتقادات کارشناسی و تخصصی من هست. در این سالها هم آثار این اعتقادات رو در برنامه های سازمان به خوبی دیدید. کسی درش تردید نداره. هیچ وقت سازمان منطقه آزاد شابهار سند مسئولیت اجتماعی نداشته. خودش رو مکلف به عمل در بوزه آموزش بهداشت و توانمندی سازی نمیدونسته امروز به عنوان یک تکلیف در برنامه‌های ماست هیچ وقت نمی اومدن مدیران ما پرواکسی باث مدانی میبرن طرح حسین محدوده منطقه آزاد چابهار اگر به گذشتهش برگردی بیش از پونزده سالی که رسما در مسیرهای مختلف داره دنبال میشه سال گذشته در شورای علیماری شخص سازی وقتی من داشتم از الحاق محدوده دفاع می‌کردم دوستی به من یاد داشتی داشتی یاد شما داشت قربانی سند تاریخی نگه داشتم که شما دارید خیلی جسورانه وارد یک میدان بی میشوید شما قربانی این توسع خواهید شد به استقبال این رفتم چرا که مانع اصلی این نارز... علت هست که نارضایتی ها و این فاصله بین مردم و منطقه رو همین فنس میدیدم و باورم به این بود که این فنس باید برداشته بشه و خوشحالم این روز اگر به من بگویند یک کار در منطقه آزاد انجام دادیم میگم این فنس رو برداشتیم تلاش کردیم شبانه روزی هماهنگی ایجاد کردیم تعمل ایجاد کردیم جلسات مکررهی رو در سطوح مختلف نظام برگزار کردیم و این اتفاق نظر رو ایجاد کردیم که با کمترین حاشیه‌آلارام همه موابضی که در ارتباط با حسین امیدی‌های فرندقاضان در کشور و مجلس وجود داره چابهار ها بدون هیچ مخالفته‌ای مسیر رو کرد و این اتفاق افتاد اما آثار کارهای انجام نشده 25 سال گذشته و بی‌توجهی‌ها و غفلت‌های تاریخی در این مسیر وجود داشته انتظار نداشته باشید یک شبه با یک قانون با یک تصمیم و با یک یک سال و دو سال حل بشه حتما یک زمان از همراهی رو میخواد و حتما این همراهی و هم مشارکت رو میخواد که ان شاء هر چقدر بیشتر این تامور همکاری و همراهی و خواست عمومی بین مردم و سازمان پیش بیاد مطمئن سرعت این تغییر تحقیل و تحولات بیشتر خواهد شد آرزوی سلامتی دارم برای همه شما و موفقیت و ان انتظار داریم که در آینده خیلی نزدیک شاهد این باشید که اتفاقات خوبی در این روسته ها ما این روز نفته آغاز ما نیست امروز روزی هست که ما میخواهیم با هم دیگر سر یک برنامه مشخصی همراه از عزیزان ما در برداشت نقشه هاشون در برداشت تصویر اسناد در ارتباط و برنامه های روشن و برداشت نیازمندی های محدوده اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن و بنیاد بسکن رو در یک قالب و قاعده جدیدی مواید این بازی کردیم و همین الان تقپای عادی همه روستاها رو تکیید کردن قرارداد بازیگری بکنن با کرده جدید حتی اگر زمان بازیگری تنهادی هم نرسیده باشه اون چون یک ظرفیت و یک اتفاق جدیدی افتاده تکیید کردیم که همه اینها رو مجدد بازیگری بکنن قراردادش هم منعقد شده همزمان با بازیگری طرحا گفتیم اجرای ترهایی هایی رو در دست و بکار بزنید. یعنی منتظر نخواهیم شد حالا ترهایی و طالبه شود که خادی دور بروستا بگیریم بعداً زمینا ما را مابچه داد بیم قربانی تلخی ناز. همین امروز تاین تکنیف عرضی انجام میشه. تاین تکنیف عرضی که شاورزی مردم عرضی دهیمیشون. هر یا آنچه که حقوق مالکانه مردم هست اساس مقررات جمهوری اسلامی در این منطقه دوبار فعال شد. حقوق شما بررسی نشدند. چنانکه فعال شد این هایی که در مرزیم کنم نکاتی که شما باید به مردم بگید البته بعد از اینکه اطمینان از این کلایندها پیدا کردید چون شما باید در مقابل مردم پاسپور باشید این رابطه و این فهم رو شما باید برقرار بکنید با دوستان روستای تا تعامل نزدیک بگیرید تجربیات به زیادی ما با هم دیگه داشتیم استفاده بکنید از این ها و مسیر رو تعریف بکنید که از این فرصت تاریخی در زمان کوتاهی bunchumde ای از این کمبود ها و نارسایی ها رو بتونیم حل بکنیم. جناب های سارانی به دلیل اشرافی که نسبت به مسائل موضوعات قوانین و مقررات دارن و شناختی که من از ایشون دارم مطمئنم به عنوانی مشاوره امین هم برای شما خواهد بود هم برای ما. و من تمام اختیارت قانونی خودم رو در این بوزه به ایشون تفریز کردم و ایشون با اختیارت ها هم دارن بر با و شما به انجام ش حتما مسائل و موضوعات و در شما رو هم در اون هیئت تحقیق و در در خانه تحت توسعه جناب های هم به‌عنوان نیروی متخصصی که اطلاعات کامل دارن و اشراف بر موضوعات دارن به شما کمک خواهند کرد و مساعدت هموار خواهند کرد همه واحد های سازمان معاونت ها و مدیریت های مستقل مکلف میدونن خودشون رو که رفتاری مشابه اون که در محوله 14 میذاریم تا در گزارش داشتن در محوله هشتاز دو هزار افتار داشته باشند و فراتر از اون به دلیل اون در واقع عقب ماندگی های طالفی که وجود داره باید فراتر از اون با سرعت بیشتری توجه بیشتری بیره بزاستورت بگیره که انشاءالله شاهد یک اتفاق خوب و شاهد یک زندگی بهتر و شاهد عزت و افتخار و سربلندی مردمان این سرزمین باشه این که شایستگی و حق خیلی فراتر از این ها بوده من رسایی میکنم از اینکه بالای کلام خیلی خیلی ببخشید خیلی طولانی شد و واقعا دست اینقدر صحبت کردن رو نداشتم اما به عنوان یکی جمع این نکات رو عرض کنم به عنوان برنامه ها و ها و, و نگاه‌های تخصصی که امروز در سازمان منطقه آزاد چابهار هاگ هست همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و ادامه جلسه رو جناب آقای صادقین جناب و آقای ادامه داد خروجی جلسه رو هم حتما تبدیل به صورت جلسه بکنید. مذاکرات مزاکرات به نقطه نظرات دوستان هم منکس بشود. هم خدمتهای فرماندار ارائه بشود. هم بعده ببینن و هم پیشنهادات اقداماتی که درنده لازم هست روش کار بشود رو حتما ارائه بکنید و اشانا این نقطه است برای برای تقوییت مشارکت شما در این فرایند توسعه این جمعه رو هم بگم و ختم کنا مهمباب تحکیم اگر با فرایند توسعه همراه نشدیند حتماً سهمی از سمر این توسعه نخواهید داشت با بردت سلواتی و بر محمد و آلم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تا ای بابا شریف فاضل دردیر رئیس رو مثل مثل برنامه دعوت کنم اجراب مهندس سارالی می خواهی کنم آیا جوانزه یک تشید کنم آیا جوانزه یک در این استفاده میکنه از فرماشا تومیم از سارال مای جوانزه ی همونجوری همی که مدیرانه مختلف نیست روستان می صحبت میکنند در حیمت رو اصلاً مختلف ها بختر مختلف همچنین دیگی مختار را هستم از که نیاز بود سوالات سپرات و بدل بشین از که سوالات خودشون را کنم این شایلا بتونیم جمعه نظرات همه عزیزان را داشتوش لحفظ سن بطاری باید السلامی هستیم به بلکت سلمان بر محمد و حالا <تصحيح> محمد اللهم صل لعلا محمد برابری. آنچه که ما در قسمت اول از اون خدمت دوستانی کنیا از مجموعه قوانین و است که در حقیقت در قوضه تطبيق و مسببات در و در ادامه هم در قوضه قوانین مرتبط با دنیای ها و شعرهای اسلامی در حقیقت انوان خواهد شد در دوستان و استعمالین اگر سؤالی در زندشون هست و خواست داده نشده باشد. می توانند که سآلات رو مندر بکنند و در دقیقات ما پررسکی کنیم و جواب در دقیقات دوستاختیم. به درونی پردامن از بکنیم که ماده شسیخنج قانون اککام دانه موسی در رقیقه کبسر دوش انگاه می که اختیارات آی فرمون دادن در موسیقات جورای اسلامی شهر شهروز در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد در حقیقت واگزار میشه، که بر این استناد هست که در حقیقت هیئت تطبیق مصاببات در منطقه آزاد تشکیل شده و همونطوری که دکتر کردی فرمودند در یک تعامل سازنده در حقیقت مقرر شد که تماینده از استانداری در حقیقت به عنوان مسئول تطبیق مصاببات وظیفه بررسی مصاببات و تطبیق اون با قوانین مقررات رو در حقیقت ایفا بکنه در خیلی از مناطق در حال حاضر که رسد شده و بررسی شده این تعامل شکل نگرفته خوشحالیم که در محدوده منطقه آزاد در حقیقت فعلا این تعامل شکل گرفته و ما خدمت دوستان هستیم عرض به حضور شما که نحوه رسیدگی به مصوبات دوستان توجه بکنن لطفا اگه قرار هست که بهره بری داشته باشیم دوستان با توجه بکنن نکات مهم بعد در اجرا قطعا دوستان باش دوچار چالش خواهند شد عرض به حضور شما که نحوی رسیدگی که مصوبات گردش کار مربوطه تو ماده نود قانون تشکیلات شفاف گفته شده تبیین شده نکته مهم و کلیدی که در ماده نود شما میتونید ازش بهره برداری بکنید اون در حقیقت مواعید و زمان بندی است که در ماده نود بهش توجه شده و همه اینها دارای بار حقوقی است ببینید مصوباتی در شوراها گذرانده میشه مخصوصا شوراهای این منطقه که عملیات اجرایی و عمرانی در این روستاها در حقیقت بار اقتصادی قابل توجهی داره در روستایی مثل تیس در روستایی مثل رمین در روستایی مثل کوم در روستایی مثل عثمان‌آباد و بقیه روستاها این محدود عملیات اجرایی و عمرانی بار مالی و بار ارزش افزوده زیادی داره بنابراین مصوبات شما قطعا ارزش اقتصادی خیلی زیادی خواهد داشت و نهادهای نظارتی این مصوبات رو قطعا رست خواهند کرد، بنابراین هر آنچه در حقیقت به عنوان مقررات گفته میشه و تبدین میشه رو دوستان باید به دقت مورد توجه قرار بدن که بر اون اساس در حقیقت مورد بازدید و بارسی ناد نظارتی که قرار میگیرن بتون از عمل کرد و خودشون دفاع بکنن. بنابراین آنچه در ماده نود ما خیلی باید بهش توجه بکنیم مووارد قانونی است که در ماده نود دیده شده. از جمله این هست که، مصوبات شورا دو هفته توسط هیئت تطبیق فرصت دارن که در حقیقت بهشون رسیدگی بشه و پاسخ شورا در حقیقت داده بشه یعنی شما مصوبه‌ای که به تطبیق میفرستید دو هفته مهلت داره هیئت تطبیق به شما در حقیقت پاسخ پاسخ بده در حقیقت و اگر این دو هفته بشه 15 روز مصوبه شورا عملا تصفیه شده تلقی میشه از نظر هیئت تطبیق موقعی که حیعت به شما مصور برمیگردونه اگر ایرادی برش مستطر باشه شما ده روز فرصت دارید این رو بررسی بکنید. یعنی اگر ده روز بررسی شما در شورا بشه یازده روز به منظله تمکین بر مصور اعتراض هیئت تطویق در حقیقت تلقیم میشه. این ده روز کلیدی است که شما باید در حقیقت بهش توجه بکنید و در حقیقت اگر شما این مصور رو به عنوان در اعتراض به عملکرد هیئت تطبیق برگردونید به هیئت تطبیق با مصوبه و 48 ساعت در حقیقت هیئت تطبیق مکلف است این رو به هیئت حل اختلاف زیرت بفرسته و هیئت حل اختلاف هم 20 سوز فرصت رسیدگی داره اینها همه موعدی است که در قانون بهش اشاره شده با دوستان بهش دقت بکنن قانون یه مقداری خوندنش و مطالعه کردنش ممکن برای دوستان سخت باشه اینا رو حالا ما سعی میکنیم با همکاری منطقه آزاد یه جزه آموزشی خلاصهی هم برای دوستان تهیه بکنیم و تقدیم بکنیم خدمت دوستان بنابراین آن چه در ماده نبد تشکیلات، در قانون تشکیلات در حقیقت دیده شده الزامیست برای گردش کار ارسال مسوابات به در حقیقت هیئت تطویق مصوبات این ماده نود قانون تشکیلات یک آینامه اجرایی داره که در حقیقت در این آینامه اجرایی با چند تا مطلب در حقیقت هست که باید دوستان بهش توجه بکنم من در قسمت اول هم ارز کردم باز تاکید می کنم یه نکتهش این هست که اگر مصوبه از شورای اسلامی روستایی آمد که نماینده شعرهای اسلامی روستا توی حیعت تطبیق بود در حقیقت باید شورا اسلامی اوستانی رو جایگزین بکنه. در حقیقت فرد شرکت کننده در جلسه هیئت تطبیق. تو ماده 6 یک تکلیفی برای شوراهای اسلامی روستا در حقیقت دیده شده. این هست که شما یک هفته فرصت دارید که مصوبه رو بعد از در حقیقت تصفیه توسط شورا بفرستید برای هیئت تطبیق. یعنی اینجوری نیست. بعضا دیده شده که ما الان مصوبه ای حالا یکی از روسته ها من ازنی برم فرستاده بود برای هیئت تطویق منطقه تقریباً چهر روز بعد از تصفیب فرستاده شده بود برای حیعت تطویق. حیعت تطویقی میتونی رد بکنه و برگردونه چون در ماده شش آینام اجرای ماده 90 قانون تشکیلات سراحتاً میگه شما یک هفته فرصت دارید که مصوبه خودتون رو در حقیقت برای هیئت تطویقه ذیرات بفرستید زمان بندی این که هیئت تطبیق چجوری میتونه بررسی بکنه و برگردونه و شما چجوری اعتراض کنیدم که توی قسمت اول عرایضم ارج کردم خدمت دوستان عرض و حضور شما که هیئت تطبیق عرض کردم دو هفته فرصت داره شما مجدد ده روز فرصت دارید که بررسی بکنید و نهایتا 48 ساعت بعد از اعتراض شما هیئت تطبیق مکلف هست که این رو در حقیقت بفرسته برای هیئت حل اختلاف زیره نکته مهمی که باز در حقیقت آنامه اجرایی بهش اشاره کرده این هست که اگر در حقیقت مصوبه رو شورای اسلامی روستا میگذرونه که بخشی از اون مصوبه به عمل دستگاه اجرایی مرتبط هست شما مکلف هستید که اون مصوبه رو برای دستگاه اجرایی زی هم بفرستید امدتا در این مناطق مثلا شما مصوبه میگذرونه که به عمل دستگاه مثلا مثل شیلات ربط داره این رو حتما باید در حقیقت برای دستگاه اجرایی هم بفرستی که دستگاه اجرایی هم طبق قانون در حقیقت می تواند این رو بررسی بکنه و در حقیقت اعتراض خودش رو به مسوابه به هیئت تطبیق اعلام بکنه و بر اساس آن چیزی که در قانون در حقیقت دیده شده راجبش رسیدگی بشه. عرض به حضور شما که نکته بعدی که باز در مقررات در حقیقت دیده شده و باید بهش توجه کرد این هست که مسئولیت اجرایی مصوبات شوراهای اسلامی روستا بر عهده دهیاریست است یعنی مانند شورای اسلامی شهر که مسئولیت اجرایی مصوباتش با شهرداری هست در حوزه شوراهای اسلامی روستا مسئولیت اجرایی مصوبات بر عهده دهیاری هاست که در حقیقت مکلف هستند که مصوبات شورای شهر رو با ذکر در حقیقت این فرایندی که خدمت دوستان عرض کردم به اجرا برسونند نکته کلیدی که این وسط وجود داره این هست که دهیاران می توانند به مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی روستا در حقیقت تمکین نکنند و نسبت به اونها اعتراض بکنند این هم باز در قانون در حقیقت پیش بینی شده و نکته است که دهیاران محترم می توانند از این ظرفیت استفاده بکنند یعنی اگر فکر میکنند و عدل ای دارند دا بر اینکه مصبه شورای اسلامی روستا خلاف ضوابط و قوانین و مقررات هست می توانند به هیئت حل اختلاف زیرب که در قانون غیر شده در حقیقت شکایت بکنند و ابتال مصبه رو در حقیقت درخواست بکنن این گردش کار و فرایند حتما باید به صورت مکتوب ثبت بشه یعنی، جلسه شما بر اساس اون هایی که توسط هیئت تطبیق قبلا توسط فرمانداری محترم و در صورت نیاز الان توسط هیئت تطبیق مصوبات منطقه آزاد در حقیقت در دسترس شما قرار خواهد گرفت بر مبنای اون شما باید صورت جلسه تنظیم بکنید این صورت جلسه باید در دمیرخانه شورا ثبت بشه حتماً صورت جلسه شما باید در دبیرخانه منطقه آزاد ثبت بشه از اون تاریخ قاعده و موعد زمانیش در حقیقت محاسبه میشه و همینطور اعتراض منطقه آزاد به مصوبه شما هم باید در دبیرخانه در حقیقت شورای اسلامی روستا ثبت بشه و در, دفتر در حقیقت شورای اسلامی روستا ثبت بشه و بر این مبنا محاسبه انجام بشه این مستندسازی در حقیقت نکته خیلی مهمیه که دوستان باید بهش حتما توجه بکنن عرض به حضور شما که ما دو تا ماده داریم در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای های اسلامی که جزء مواد مهم در عمل کرد های اسلامی در حقیقت تلقی میشن و لازم هست که به این دو تا حداقل مختصر اشاره بشود در ماده 91 میگه هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مساله عمومی کشور یا حیف و میل و تجاوز غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها به نحوی به احده شوراست انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار آخر این بحث حیعتهای حل اختلافه یعنی اگر مصوبهی در حقیقت توسط شورای اسلامی روستا بر خلاف و مقررات در حقیقت تصویب بشه و منجر به حیف و میل بشه در حقیقت فرمانداری میتواند که اختیاراتش به منطقه آزاد فیلن تفیز شده البته در یک تعامل من ارز میکنم در ادامه که شیوه در حقیقت پیگیریش چجوری خواهد بود این رو در حقیقت میتواند شورای اسلامی روستار رو در حقیقت بررسی بکنه عمل کردش رو و منجر بشه به یک تصمیمی که در حیط تل اختلاف زیراب گرفته میشه و در ماده 92 در حقیقت بهش اشاره شده از اختار کتوی بدون بادج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی در حقیقت ما مقررات تنبیهی داریم برای شورای اسلامی روستا به صورت انفرادی و جمعی عرض کردم از اختار کتبی با درد در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی شروع می شود تا عرض به حضور شما که ممنوعیت از نام در انتخابات شوراها به صورت دائم در حقیقت در هشت بند مجازات هایی برای اعضای شورای اسلامی شهر به صورت انفرادی و تجمعی در حقیقت دیده شده که این بر میگرده به اینی که شما باید حتما در روند بررسی مصاببات به یک دقت نظر بیشتری داشته باشید مصاببات باید بر مبنای قانون زوابط و مقرراتی در حقیقت بنانهاده بشه که آیه منز جمال در ادامه کلیاتی از مجموع قوانین مقررات رو در حوضه شوراهای روستا و دهیاریا خدمت شما عرض خواهند نمود که بر اون مبنا شما حتما باید مصاببات شما بر اون مبنا در حقیقت، پیشوینی بشه بد من نمیدونم اعضای محترم شور اسلامی شهر چابهارم قرار بود تشبیه هرن نمیدونم کسی اومده از شور شهر چابهار بسیار عرض به حضور شما که نکته کلیدی ادبیات مشترک در انشاء مصوبات هست یک مصوبه گایی وقتا شما ب... اصل مصوبه درسته ولی انشاش در حقیقت بگونه ای هست که با قوانین و مقررات در حقیقت برخورد پیدا میکنه من نمونه عرض کنم خدمت دوستان مثلا شما میخواهید خدمات روستایی رو واگذار کنید به یک شرکت هدف شورا از این مصوبه این هست که با یک شرکت خاص قرارداد ببنده و آیین نامه مالی رو رایت بکنه سقف ترک تشریفات رو رایت بکنه منتها در انحاء مصوبه اون کلمه ترک تشریفات قید نمیشه یعنی ترک تشریفات مناقصه در ادبیات در حقیقت مصوبه نگارش نمیشه. این اشکال داره بر اساس قوانین و مقررات. در مصوبهی که شما ترک تشریفات نویسید باید در حقیقت اولا مستند باشه به پیشنهاد دهیاری، دوم باید مبلغ قرارداد قید بشه، سوم باید نام شرکت قید بشه و چهارم باید ادله توجیهی علت ترک تشریفات قید بشه. این این قانون هست. بنابراین اگر شما در ادبیات در حقیقت مصوب این رو رایت نکنید، هیئت تطویق قطعا این رو مورد ایراد قرار میده. بنابراین دوستان انشاء مصوبات و ادبیات انشاء مصوبات هم نکته کلیدی است که در هیئت تطبیق در حقیقت بهش توجه میدن، شاید بخشی از اون در حقیقت نقطه نظری که دوستان نسبت به هیئت تطبیق دارن و بعضا من بالاخره استماع شده که تو حوزه عملکرده هیئت تطبیق بعد از تغییری که در حوزه منطقه آزاد آمده بعضی وقتا این مسووبات دو چالش میشه در حقیقت بخش مال این هست که ما یک علاوه بر بررسی مسووبات یک فرهنگ سازی رو هم در حوزه در حقیقت ادبیات و انشاء مکاتبات و انشاء مسووبات در حقیقت داریم دنبال می‌کنیم که اینها رو برسونیم به اون سطحی که انشاء مسووبات در حقیقت مطابق با مقررات و ضوابط باشه این از کلیاتی از هیئت تطبیق هست که فکر میکنم در همین حد بسنده بکنن حالا دوستان شورای چون تشفی ندارم ما وارد مجموع قوانی مقررات شهرداری ها نمیشیم در حوزه دهیاری ها هم آیم از جمال زهی خدمت چون هستیم که توضیحی رو خدمت دوستان باشن باز مجدد تاکید میکنم هر سوال و ابهامی که به ذهن دوستان میرسه رو بعد از فرماشت آیم از جمالزهی وقت بذ کافی هست از به حضور شما که تونن دوستان مطرح بکنن در حد بزاعت پاسخ میدیم اگر نه هم سعی میکنیم در حقیقت کلیاتش رو بررسی بکنیم چون همونطور کار هم فرمودن و های دکتر کردی هم تاکید کردند ال رغم تصریحی که در قوانین و مقررات به وجود آمده ولی در بعضی از یاها مقررات داره است که در صدد رف هستیم و اینها رو دوست داریم که دوستان که به صورت اجرایی هم در حقیقت در شوراها مشغول به فعالیت هستن اگر ابهامی برای اجرا در حقیقت در اجرا اگر ابهامی دارند اعلام بکنن که این رو هم ما بذاریم تو دستور کار بررسی و بتونیم که یک در حقیقت شیوه واحدی رو برای اداره امور روستاها در حوزه منطقه آزاد بش برسیم و ملاک عمل قرار بدیم خیلی متشکرم از سوسله که دوستان کردن خدمتهای مهندس جمالزهی هستیم به برکت سلوات بر محمد به خانم به این من هم بلوم بکنم و عده و احترام دارم به شما بزاره متنجرسه و تشکل ویژه دارم از مداخه رو بتارم مداخه رو بتارم مداخه رو بتارم شما و با رو به شما عجیزان که قبولی زحمت کردید و تحمل کردید که ساتیکیم در خدمت شما عجیزان داشتیم که به یک مروری در این, در این حوالی رو. و مقر داشته در داشته عزوز درستن به وزده هایم در موقع روز زن هم این روز به بخشان محترم اونوان مالوان فعال مرتبه دیاران ما هم و شعرهای ما بگیریده این شهر ترستان داری و جانده تبریک رو کنم و یامولای دیگه پس رمکنم شما عزیزا تبریکی داشته باشم دوستان نالا هم هستنگ میکنم از تکرار قرار دو بگیریم کنم و در حتی که دیم هم در در کشی داره شد، هم دقیقا شما هم بتونیم دقیقا شمایی وحیبریه شما داشته باشیم، اون رو نکنیم چه از اون برصورت، قربیات و همهایی و هم برادر از این جناب سارانی اونهایی کردن، و با این در واقع حالا سی و تا روستا، سی و تا روستا, روستا, روستا رو واهرم به محدوده این محتقه آزام پیدا کرده که از این است که شما مشخص نمودید که در ساقه را دارید ساقه و از اینکه ای دوستان 245 تا درای دهیاری هست یه درصد ممکن می در واقع چوله میشه که اونا جو به ناگه کنتاکت فعال زنگ یک های منطقه آزاد ما می از این یک هم متصل ها در جهت توسعه و آبادانی همه جانبه روستا ها قدم برداریم ببینید در بهیاری که شما اموال بزرای روستا ها هستید هم در جریان می شورای محترم ایشدا دستور این رو ندونتون که من داره ال دوات مارسن به روسایت داشته باشه این مصلزمه ای که داشتن یه برنامه و یک هدف بلند مدت کوتاه مدت یک سالی وقتی برنامه بلند مدت 5 سالی بوده که اون بتونید مسائل مشکلات سطح دوستانتون رو و بندی کنید. کنید و بندی کنید و طبق مدارم کنید که تنهی برنامه مشخصتون بدید واریز کنید بدونید دیگه اون مورد بردید. بس طرفی هم، حالا در این ورساس اون پیشنهاده و منجهی که شما، منجهی یک ساله مسبب میشه، بشه نوشته و منجهی هم در واقع اعتباراتی هم هم ما میتونید در نظر بگیریم. و ما حدوم اینی که با در واقع این، دو محصر که ادام در واقع این سی و چهار تا بروستا در واقع اعلاخ کنید به برداد آزاد، یک در واق مالما ایجاد بشه به این مجموعه داریم، داریم، داریم، زارش هم آسانداری اما بخش داریم و مجموعه م آزار که میتونیم یک توجو ویژه یه افزایی ایداد بشه در سمت پوه ها که میتونید در واقع سه توسه های جا روستا ها هم بشه این کا نیست که خود ب بود که اعضا محترم در شورا های روستا ها محترم و بخش های در مجموعه دیدیارات عنوان بوددیران روستا ها این که در وعده اول بات خودمون بخوام اش بکار داشته باشیم و تا اون برنامه کنیم هدف ماه باشیم و اون برای برای برای باید برای احساس اساس اون تغییر کنیم تا بریم آن تا ما برنامه‌ای یکسانمون باقی بماند تا اونکه پارسال بشه حالا بگویم این برنامه‌ای که بر شما دیشنه هدش ما، قلیل برنامه شما ما در مجموعه استانداردی و همکاران ما در مجموعه منته آزاد بتوان کمک های همه جایی داشته باشیم. ما صورتجلسه گیدیمز در سازمان برنامه در بودجه و مرتب بازر بودیم. این در موقع هم همصری جوتو بین ما, دو دلیار هستن، هستن، ما و دوستان که حداکثر بدوری های قیدی هستند، فعال هستند، برنامه‌ای و هدفمند در برنامه اجرایی دارند. ما همچنان کمک می‌کنیم. ما حداکثر این که 24 تا روستا مشه، بمانه 24 تا روستایی که قابلیت چوبانری. همین روستاهای شما یک قابلیت چوبان شدن داره، یک قابلیت بندر چوبان شده داره. مسازر است با زنمت های موات با ذدیت مترنا مز... آشنایی و ما اد بتونیم که در احساس آلمرنتی خودوم و درناه دلوقع... در واقع برازضی کنیم به توسعن های جارمه دست کنیم در این بر میگرده که میدونید بودجه داشته باشیم بود پیشنههایی داشته باشیم با مستذری دربح موجه دستی که بودجه 1400 دیداریی هااست که باید دیشته شده بود تا کلی عزای در واقع شورای مصادره شده شورای در حال بررسی میکنه کنه شورای پروژه رو تصدیق می کنه و برای اون طی مراحل قانونی مجلس داری و فرمانداری میشه، استان دار این اینکه داشته. اینو اون مصرحی که اون قانونمندی کنید تا قانونمندید میشه در موقع ها و برقرار هزینه ها داشته باشید که تمام این انجام بده. اصل که در واقع بر می‌کنه که ایجان در پایدار شما در سطح روستاها داشته باشید تا سر وصول است. هست هر کلی صکوصا در درصد روستا تحت معطلی دیگاری که شما صورت می‌گیره مستلزم این که قانون صکوصا صادر بشه در صورت داروزه شده شما معلوم در هر بخش یک نفر مسئول حداقا ناظر فنی دیگاری وجود داره چنگل هم مسئول مالی وجود داره که این هم در واقع امور مالی دیگاری انجام میده ناظر فنی در واقع میاد نظارت توی پروژه روستایی رو فرمان ساختمال صندوق رو کنه تا اون با شما با فرمایی که امضا شده که از حوزه جلسات خارج داره یک از مقاصد دیگه تالیکر ساخت وسازهای غیر مجاز در دست دوستداری که وزارت که شما اینطور پیمان هست و نهایتش میگه اینه که تالیکر هر حیبن ساخت وسازا با قانون فرمان ساختما باشه ما برسالت در عادی هر روستایی که امضای کرده در دو حلقه خوردن شروع میکرد. مسائل کنسولوس فرمان به نظر بحث بنیاد بسکم بودی که دروگیری میکرد حالا بیا طوری شده معلوم برد. و من تصویر ترحادی روند اجرای و مو کامل ادوار کنسول الان در واقع ساخت رو به برای میش بگیریم و داخل از این بدون در جهت آنقدر کنسه‌ی ریساخته مستقیمی و حوزه امریه رستمو مستقده کنیم. از طرفی هم در واقع طالابوری که بینید و از هم شورای روستایی که, همیشه من ما ما که چون ما روستایی روستایی شما در نظر ما بودید و این ما بودید که وقت صورت می‌گیره همون که ما تاکید بکنید که شما مشارکت روستایی کج روستایا رو می‌بینید یعنی که دوستانه رو شما در concrete دلون گروه طلب بدید آگاه سازی کنید در بحث‌های توسعه و جالب روستا. چه در محیط خاصی رشته‌ها در بحث, بحث امور زیر در باید کنید, مردم کنید. که بصورت ما هم دستفاده بگیرید این طالابوری شورای دیگر هم تا وجود شد. در صت اول در صد روز با وزارت به وجود یعرضه محترم شورای دوستانش که در واقع صورت بگیره. و اینی که در تمام در واقع و مصوباتشون که در انجام میشه یا مثالی دیگری که دهیاری میده باید به تصویب شورای برسه که در واقع هم وجود یک این که خارج از بودجه شما تأیید دارید درگاهی دارید که می من انجام میشه مونام و باید در واقع قابل یا متمم بودجه اضافه بشه و تلکن انجام بشه. حالا دلیل بین تبعیه و هم در قوانین الهی ما دیدگی‌ها هست یه این بخش از هزایده‌های فکری و ساخت و ساز انجام بدید. نظاماتی که باید انجام میدن در اون آینام و راهنمای اداری ها و کمپرند شاده شده. تو بسته یکی از موسیلات اصلی در حال روسته با ما بست مدل اسمان هست اینو باید در موقع همیشه من نظر شما عزیزان باشه در واقع یکی از افعاد توسعه اینی که حالا من مسئول یک روستایی که در خط روستا زندگی میکنه داشتن حال خوب یعنی حال خوبی داشته باشه خودش از یه داشته هاش راضی باشه یکی از سرایی که در حال روسته بحث مدل اینی که متاسفانه، وقتی مثلا حیصولی بشه مردم آگاه سازی بشن توضیح بشن و ما پیمانمون که ردگیاریامون باشه که ایناول شاهدین تاثیر گذاشته باشه حداقل این ماشینات حد جریمه زباله جریمه نشوند اونایی که ماشین ندارن حداقل بر اساس اعتباراتی که ماهانه به حساب شما میشه ماشین اجاره کنن یا به صورت میخوام بخشا میتونن ماشین‌ها رو چون درصد بخش تشویق کنید و مناقشه کنید هر روزی جریمه بشه یه روزی جریمه باشه یه روز جریمه به همش یک به همین شکل توناد ماشینها بیکار نمیشن و در واقع هزاره اجاره شونو دیگری ماشین دارم در واقع مزاحم اردا در صورت اینی که نمیتونه در میگه که یه اصلی اصلا نیومد محسوب یه محسوب دیگه بیبیش که نوآور ساحلی باشه و از خیلی از دوستها خیلی مهمی که هم در صحت روستا هم در صحت نوآور ساحلی بایست میگه محسوبت را پنداشته باشی. در صورت دوره ای سرور زرعت سرور زرعت این جوان رو داشته باشید 10 زبانه حالا خوشبختانه تحصیل چهارمستر چهاروره کوله کنه که این در مورد پلی اینه که صدور مدت پاسپورت همایگی شده و در شده شما میتونید حالا همایگی کنید طلب ببندید که زبانات رو به مدت 6 ماه حالا به هم طور دفعه به انجام تو به و من کنم خدمت شما وضعیت منظر روستانی بودم تایید شده که در قلبه که از ما کنم که خدا در تماسیم بیرد برش بودم هر برش اعتبار، هل و خود مستعزن هسته و در مجموعه بزارکش را هم به حساس پیشهال بخشتالی، فردانداری و دریز میشه ما که الوقت اعتبار داریم، ماشینات داریم، ولی متاسفانه ا پشتوانه دفتر مالی و حسابداریه که نگید که ما شما هدفمند نیستید برنامه ای ندارید پروژه گردشگری اعتبار داره ولی مصممین که در واقع شما یه برنامه تر توجی بنویسید تر گردشگری بنویسید پیاده کنید در صورتی و اینو توی اداره نام انجام میشه در سطح درست. البته اگر لذا كده مناسبه که شما در کشور داره یه برنامه پتانسیل هم الان در موقع مراجعه بذارید. حالا از بحث بحث‌های وزارتی که حالا در ویژه تامل کامل توضیح داده، فارغ از محتوای نزدیک، و آنها برای ما مهم بسیار اجزایی از دوستان است. در واقع شما با بازبودیل آن دوستان، زیرا از آن بودم شورا کار، مشغول کار هستید و هدف میتونید از این سرگیریات از این در واقع که ایجاد شده به نحوه احسن استفاده کنید این کار بازی نیست مگه که خود در واقع به و به برخی داشتن و بهتر از اون که بالای 20 خانوان هست در مقرود منطقه آزاد و دهیایی هم ندارند، خانم بخش دارم شما اگر شما داشته باشند، در خواستون جمللی کنید اون چند روستان رو هم با مجرمز تقسید دهیایی بهشون انتا خواهیم کرد حداقل بتونن هر روستانی متولی داشته باشه و مرساس اون همون بتونیم، همون اعتماع هم بشون کنیم و همون که تنجازات ماشرنه هم بهتون تلاق بکنید که برساس کنند، بر است. ه اصلی بر مورد شما اعت ایاران گوزشته شده چه در ن امنیتی، اجتماعی فرهننگی و مرانی و توزیع ای که تقانرو مت مستزن هستید اینها برناع ها حالا بنجگاه با خورید برور کنید ما میشه بررموزی خواهی کرد که در بین سال که که ما رو اینکه شرایط کرونا چندتا متر داشته باشید به استالما بروز های دوای آموزشی در نصکن کارها هستطور دوره ای وز تو رو آن مه چون در مت با عنوان ها باش باشد بر ساخت و سازه در مجاز دو پرو ساختمان و سایر موارد مورد نیاز شماظ است. در صورت یکی از برث خیلی مورد تکید ماست توان سازی خاانوا های بوستایی و زاد اشتقانه. الان پسنظر از دکتر جدی که موبار مدی مسئول مکتز در در جمع زود پیدا کنم. در واقع در جماتی چون بود که در واقع از این ظرفیت بردست تغییرات شیرا که در واقع در شخصا شما گروه داره اقدامات خوبی را انجام دادم شما میتونید در واقع اینو نهادینه کنید در سطح روستا روستایاتون آلمان سازی کنید ویژه اشتغال اشتغال در واقع یکی از بخش‌های اساسی ما در سطح روستاهاست که تا زمانی که در واقع اشتغال پایدار در سطح روستاها بران اشتغالش خانواده روستا یوروباست وقتانه در سطح شهرشدار شما کن لنگ با تم سحیت تبلتی که وجود داره ما کمتر می بینیم را این کار ولی ما ترجم سکه های گریه دوستان سر داره یه روکان سنگه تبدیل داره خیلی یا در موقع از شما رووس بود که نار سایر ما را شد درشیلای داریم و میدونید درواقع خواهنا و مادران م سطح دوستستا ضوردار و میتونیم با این ثح آشنا کنیم و هر کوم خووم میتونیمیه کارداریی رو در سطح ا کنید این اینم میگن که اینو شما بتونید صفحه حساب بازسازی کنید یا بازسازی کنید ایظرا ان شاءالله میتونن گردگیری پادگاهای رو مستبر داشته باشن چه درصد شهرستانتون چند درصد بخش و مستوطن از ای در غیرا حالا به صورت و رو چون در ماندی من چند بازادم قطع تو بحثهای ازجایی و مشاوری کمک می‌خوام کرده تا هر توسعه برنامه‌اش که بتونم طرحای کیش نهادیوش شما رو بررسی کنن گشایبره بیدرم و آليتگي بنيم. آليت که در حال ازش میکنم تو در طور مثال گشکر تا رستا فراموند. این مطلب آليت بندی بنيم بسته نورت هم زمانی داشته باشیم و بتوانیم اون در خواست احتمال و در خواست کلایک داشته باشیم. چه از ماهنگی متقابلتی و چه از که قانون داشت شما داشته که اونو اولش کنیم. و از طرفیم بردازاندیم شد او که هدفشون این که بدونی یک دان مواده و سازنده رو در این سطح نیستیم. شرکت در همین به وجود بیاره. در رحصای در واقع جلسات شورا های روستان تکیل شده که دو جلسه در هفته برگذار کنید و به شکلی متاسفانه حالا من در شهرستان شما کل روستانی که ما رو با خیلی ها تاوانی که او میداره با تهگیان ها ادامات خود در نحوه خوبی انجام دادن در سطح روستا و بعضی بعضی برعکس هستند قابل حالا این شکلی درخواست هستند این بالاخره فرصتی که محترم شده برای اینکه نظام و دولت که در سطح روستا بتونه حداقل اقتصاد عناوین در از مقرری او اونی یعنه به که در سطح روستا داشته باشه با میشه که توسعه واقعا یوفته و واقعا میوفته این گونه دارومه عزای شورای محترم دوستای که در خود عمر مردم هستن و تاسو مردم انتخاب میشتن عمره دوایی مردم هستن که بیکت بر زمینه اصلیشون انتخاب دیګر دیګر اصلا انتخاب کنن و دیګر موازنه بر اساس مأموریت بررسی مسائل مشکلات و اولو المدی مشکلات ستروسطا زیر نظره. در در نظر درگاه اعضای شورای دوستایی کار کنن و ما غیظی بود ما همی تونیم منافع مردم بر نظر میگیریه ما رو کنه در نظر میدید. باز هم خوشا خوشی خدمت دوستان میشه اسفان کوشید روشنایی محاوری اختصاص به دادن کنه. میاد در, محدود میا در, محدود در محدوده خلای شهرداری انجام بده. میاد در محدوده گروه دیجان انجام بده. این که ما را بر اساس قانون یک محدوده روستی ترهادی در علاوه محدود روستار رو مشخص میکنه در چهارچوب اون ترهادی محاور به کلی روستاییان خانم رسانی کنه. چه در بحث پلیس پاسپورت چه در بحث شهرداری محاور بسازی و روستار روستایی اینی که این نهایتش وقتی که در مورد موضوعی که کارداری‌ها رو که هر طاری حادی مشخص شده در واقع مد نظر راهگیری به بخش کاربری اداری داره یه بخش کاربری فضای سبز داره یه بخش کاربری مسکونی داره اینی که مولتراژ شما انجام باشه حتماً حالا انشاءالله طاری حادی روستایتون بازنگری شود تا یک اخر نقش و اخر اصلاحات رو بگیرید در محل ساختمان بگیرید در دیگرید نصب کنید و خودتونم بدوید وزارت هم داشته باشید برای نمونه توسط سازه بیرمچانس که ما نه قابل بتونیم به دوستانه اه... در واقع شصت مرتب و تمدید و تمدید حالا اون اصول اصلی داشته باشه خیلی جاهال بخواد تنهایی اجرا کنه در متصفه مالی شون که حالا ساخت و سازش که اون در ماور واقع شده و تملک اینا سرعت در موقعی ایجاد تری در متادیو یا در همون بیسوسی موارد با خودی مواجه میه این که نهش قوتو پیگیری حالیتون باشین پ در بازگری ت حالتون باشه که می در درواقع باخرین اصلاح ها اون رو در دست باشه باش در حال یه نقشه رای شماشون میده که بتونید فرمان زیر بنایی و آمده در سطح دوستان ها صورت بگیره و از طرف میم اعرض میکن من برگگذاری که شوها در رسات کهاندزور میم شورا در ماه دو جاسه در همماه هم ده داشته باشن اینکه هم میذرت میکنم به عملکرد دهیاری هم بررسی مثلا مشکلات و دهیار ایاراصلا در درستها داشته باشه. هم تکیه میکنند، ایده میکنند. ایلاسه تر رستا هم نشون براز میکنند، نزدیکش کردی، هم نشون براز میکنند، هم نشون براز و به نزدیکی آسان دل. بر خیر رایت سلسله مراتب ده سال تر رستا، ده سال تر، ده سال تر، ده سال تر. مورد تکیه بوده و هست و از طرفیم که از میکنند که با تعامل تأیید همه جاری بیگی و که همچنین مورد تکیه تو و هست و توسعه و در واقع عمران من جای نمی‌رسم که خودتون 90 درصد هر روستا خود خسازار در حال حاضر ما در سطح استان 2720 تهیاری فعال بدید و عملاً 87 درصد در جمعیت روستایی ما تحت پوشش نهاد دیاری قرار گرفته من روحی که در صوابدم ما فرصت بکنم میتونم بگم هر استان هر بخشی هم, هم, هم بازی باشه باشه اینکه نهادها در واقع وجود داشته که در سطح بخش مرز قزوین که اینم به صحبت شما دلیل اون پروژه پنج‌گانه رو واقعا ما می‌بینیم. با حضور سرپرست اداره شفا فرصت خیلی خوبی محترم شده در اصلاً بخش مرکزی شما که می‌تونید از تعهد بودافی استفاده کنید و ماها رو از ضروره از مسائل حاشیه‌ای دور کنید. مثلا اصلی که نظر بده مقدار در دست درست انجام بدید. نه اینکه چند تا یکی مثلا حاشیه‌ای بشینید، دلیل بخمیار محب ما رو پروژه کنید، بذارید وعادتاً میتونیم در جهتی که میتونیم خالص شاخصی در مستعمر استفاده کنیم ببینید که این شواله در زمین از در زمین گنجبی شاخص هستن و ما میتونیم در زمین عندنا هم احتمال او اونم میگه ترهایی که شما داشته باشید ترهایی که شما داشته باشید تره گنجینید تصدیقات خوبی هم از طرف پاسپورت در واقع الان داره برعکسای ترهای ترهایی هر گونه فعالیت شغالزایی پنهان میشه به دیگاری به شرکت های قانونی دیگاری ها. ویدونه است. من یکی از تحصیلات استان سیلو درباره‌ی اومدن بودارشته، کمیتی در سیلو در تیزگانو درست در استان آذربایجان شرقی، در پایتخت در وادو تولی، در قطعات رو در, در, در, در, در توجه نمی‌شدن، سه چهار میلیاردمان اعتبار گرفتن و در آن اندازی می‌کردند. اینی که ما می‌دونیم حداقل همه‌زیبایی مذهبی است، همه‌زیبایی مادنی که وجود داره می‌تونیم در حال خصوصی تولید کنیم، در شکل کاروانی، به هر دیاری که بتونی از اول این تفاوت یه اشتغال در بده استرول داشته باشه وقتی تحصیلات با همین 8 درصد با ضمانت یک چک دیه یاری یک فرصت خیلی خوبه درست در موقع صدور از طرف این پست باک ام آماده کردین هر مستقیم واقعه باجی با پست بانت هست از جوانان فعال سطح روستا که دارای رشته‌های امور مالی و حسابداری باشن می‌تونن در موقع دفتر عثمان اعطا کردن بهشون دفتر عثمان علاوه‌ای گردو خدمات ارزندی به روستاها میرسونه بواسطه اشتغال زایی دوسر هر منطقه دفتر, دفتر خواهد شد بواسطه هم خود مستعزل هستید هر گونه ما سیاست و برنامه‌ای ما در محله دفتر امور شورای که هر گونه تجهیزات، اعتبارات و ماشینالات و با, با پیشنهاد مجموعه بخشداری و فرمانداری اداتو انجام کرد در مجموع مجموعه بر توازن قطعا به همین شکله یعنی تا زمانی که رضایتمند نشه تا زمانی که ما شما فراهم نشه که حمایت نخواهد شد این گونه اینا اینا من که شما تعاملی که آقا درصد روستا قروه دیلری درصد 10 شما خانوم نقش شما و حالا نمیذارم دیگه مجموعه توازن هم که اظهار در واقع نظر عزیزان دوستان گفت کنید که میتونیم از راه کمک های هم از این عزیزان دوستان بگیریم تو مسائل نظافتیه و شدهناری همین جالبه همجون بخش داریم هموری متوازار و در واقع و عملکرد تدیالی و شرا نظت خواه کرد تا سر میان بحث هدایی تکفی هم پیش کنجاب سالانی داویان کرد قیمتتون سایر مسله مشکلات حالا هست اگر دوستان هزار بحثی داشتن شما بحث و شما را در پای جلسه وقتیتر شما خواهیم داشت میذاری که در واقع بتونیم از نظرت شما بهته من میشن. من با که حالا زمان عدرسه هم یه رو طولانی شده و, و داشتی من این که هایت در خیمت دکتر عیشدریه باشه که یه فضای عوض بشه. حالا بعد هم سوالی داشتن از من از هایت دکتر عیشدری و ما باید اعلام که ما در خب تاهای دکتر تشمیه دکتر ارز به حضور شما که توی قوانین و مقررات کالای مندس بخششو اشاره کردن خیلی از جاها مقررات شفافه یعنی ما در حوزه عمل کرده ارز به حضور شما که دهیاری ها و شوراها ها در حقیقت هیچ تغییر اتفاق نیفتاده با الهاق ما در حوزه مقررات دهیاری و شورای اسلامی روستا عرض میکنم و تاکید میکنم هیچ تغییر اتفاق نیفتاده این شوراها همون وظایی رو دارن که قانون برشون تعریف کرده و دهیاری ها هم همان ظایی رو دارن که قانون برشون تعریف کرده. هیچ فرقی نکرده دوستان همون مقررات رو باید در حقیقت اجرا بکنن ممکنه در شیوه های وزارتی ابهاماتی وجود داشته باشه در شیوه هایی که در حقیقت امور مرتبط با نظارت بر عملکرده دهیاری ها و شوراهای اسلامی در حقیقت تبیین میشه یه جاهایی ابهاماتی وجود داره که اون رو در حال بررسی هستیم اون ربطی به عملکرد مجموعه شورا و دهیاری ندارد یعنی شورا و دهیاری مقررات خودشون رو باید به چه در حقیقت پیگیری بکنن بر اون اساس عمل بکنن وظایف تأکیدی خیلی مهمی که از قبل بر عهده ها بوده و بر عهده شورا‌های اسلامی بوده از جمله وظایفی مثل حفاظت از اراضی، بحث ارائه خدمات روستایی، بحث عمران روستا، بحث تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و مدت عمران و توسعه روستایی، کنترل ساخت و سازها، عدم جذب نیرو اینها در حقیقت موضوعاتی که از قبل هم در وظایف ها و شوراهای اسلامی بوده الان هم برش تأکید میشه ارز به حضور شما که و حتما باید مورد توجه قرار بگیره ما در حد چهار پنج دقیقه رو خدمت های دکتر اجداری مقدم هستیم و بعدش هم دوستان اگر سوالی داریم خواهش میکنم که های حقیقت یعنی تدبیری انجام بشه دوستان رو فیل میکنم صدا میرسه اتیاج میکروفون نیست اگر که بسیار خیلی متشکرم خدمت های دکتر هست بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض و سلام دارم خدمت حاضرین در جلسه و همینجور مسئولان غستانی و تشکر می از این فرصت که فراهم شد و عرض تبریک سالگرد پیروزی انقلاب کومند اسلامی و همینجور تبریک روز زن به بزرگواران بانوی حاضر در جلسه و سایر زنان بزرگوار جامعه اسلامی کشور خدمتتون عرض کنم که خب من از مرکز ثروات شیلاتی چابهار در خدمتون هستم که این مرکز ثروات به برکت همین نظام مقدس در سال 68 در مر... در چاوهار تاسیس شده و از اون سال تا همکنون اکنون فعالیت های شیلاتی را با یک ساختار اداری متفاوت از جداگونه از اداره کل شیلات استان در اینجا شکل گرفته منتها در راستای اولویت‌های شیلاتی که اداره کل در واقع داره، مرکز تحقیقات پژوهش‌های های اون کار را انجام میده و همینطور که فرمودن از بی ظرفیت های منطقه که در کشاورزی توریستی، دانداری و بحث های دیگری که در واقع شاید در معادن یا چالسیس های دینی وجود داشته باشه خب یک ظرفیت بزرگ، ظرفیت شیلاتی هست که ما قالب فرهنگ عمومی مردم ما سید سیادی هست در اینجا ولی در دنیا شیلات با سید و شروع شده ولی رفته به سمت آبزی پروری یعنی پرورش بخشی از اون سی آبزیانی که در دریا داریم در محیطهای محصول و قالب در دنیا باز فعالیت‌های های صنعتی فعالیت‌های های تولیدی شیلات برخلاف انتظار که فکر می کنیم باید در کارگاه های صنعتی باشه در کارگاه های خانگی هستن تایلند یک کشوری با بیش از 456 هزار تن تولید میگوی پرورشی که در واقع از این حجم تولید بیش از 90 درصد اون تولید در خانه های روستاهای ساحلی در واقع تولید میشه نه در شرکت های بزرگ صنعتی پربرش میگو که این مقدمه رو خدمتون عرض کردم که من به این شده که ما هم تلاش کنیم اون ظرفیتی که در واقع مردم منطقه دارن و همینطور همکاران کاران پژوهشگر در منطقه از اون های شیلاتی منطقه رو تونستند در واقع به دانش فندیش استخراج کردن تونستن به این مرحله برسونن که بتونن حالا به یک همکار دیگر، به یک تبوازمند دیگری منتقل کنند اون اطلاعات را که عملیاتی بشه و محصول تولید کنه را از مدیران و استانی خواهش کردیم در رویه کرد اداره کل شیلاتمون قرار گرفته و یک اولویت در اداره کل شیلاتمون پذیرفته شده که ما بتونیم با اون هم افزایی که در با ها داشته باشیم ما به عنوان مرکز تحقیقات در بخش در مهارت آموزی اون کار و در بخش ارائه اون دانش کار و در ادامه در بخش پشتیبانی اولیه ای که یک محصولی میخواد شروع بشه در واقع کشاورزی که میخواد زمین کشت کنه بعض میخواد در واقع اون در اون کارشیلاتی هم ما بتونیم بعض را فراهم کنیم از چرخه وسط را در واقع متقاضیان اون بیشتر روستاهای ساحلیمون درگیر این کارهای خرد شیلاتی بشن و مصمودیران استانی ستادیمون در واقع اون حمایتهای تسهیلاتی رو داشته باشن و در چرخه آخر تلاش کنیم اون شکل زنجیره کامل رو برای بازار ایجاد کنیم که در واقع کسی را ناخواسته وارد این اتفاقی که بدکارش کنیم، شغلی بهش بدیم و به معرفی کنیم و بره بامی بگیره بدکار بشه نکنیم اول بیاد در آموزش ببینه، خودشو امتحان کنه اونجا بعد با همایت بره اون کار را در عرصه مقیاس های مختلف در واقع تبدیل به یک شغل، تبدیل به کارآفرینی محصول درآمد کنه ظرفیت های مختلفی اینجا هست هم از تکثیر پرورش انواع ماهی و میگو میتونه باشه هم در بخش استفاده از ظرفیت های فراوری استفاده از زایعات در محصولات شیلاتی که در منطقه کاری انجام میشه در واقع در بخش مثلا تن ماهیان زایهات در واقع بخش کارپنه های کنسرف ماهی تن ما و همینطور بخش بیبدی و بینظیری که ما جلوک های دریایی که در منطقه داریم که یک شغل خانگی فوق جزای جذابی سرمایه بزاران هم میتونه باشه که با مشاقه روستاها. در واقع من لینک بشن و اون فراوری موادی که از این جلبک انجام میشه رو ما آموزش بدیم اون متوازی روستایی در واقع انجام بده و اون سرمایه گذار محصول به نهایی رو تحویل بگیره و همینطور در روستاهای دور از ساحل در واقع همه جای در استانهای حتی خشک کشور که کسی شاید فکرشو نکنه استانی مثل یزد بیشترین توحید ماهی رو داره از استرخواهی دو منظوره کشور کشاورزی برمیداره ما در منطقه ظرفیت کشاورزی قویی داریم که استخرای کشاورزی در واقع زخیره آب کشاورزی دارن میتونیم لینک بشیم و با در اخیار دردادن بچه مالی و اون پشتیوانی فنی که انجام میدیم اون استخ در واقع نقش خودش برای آبیاری مزرعه انجام بده در این حالی که تویش ماهی هم تولید بشه اون ماهی میتونه در واقع اون میزان ماهی تولیدی میتونه جذابیت توریستی ایجاد کنه برای یک افرادی توریستی که یک منطقه مثل ذراوات با اون ظرفیت توریستی میتونه در واقع تازه فروشی آبزیان در اون استخرا اتفاق بیفته در مورد ماهی میبو و سایر آبزیان دیگری که در منطقه هستن که حالا ایشانلا ما انتظار داریم که این شبکه ایجاد بشه دهیاران افراد را معرفی کنن شروع کردیم این کار را با پردیس پارکر چا چابهار و همکاری دانشگاه بین المللی الان دوره های مجازی و بیناری گذاشتیم عملی میان در مرکز دقیقات آموزش میبینن اون دوره ها در واقع با حمایتهای منطقازات به صورت رایگان داره انجام میشه و افراد میتونن در نهایت از اون تحصیلاتی که در واقع در اختیارشون گذاشته میشه را به در اصطلاحات مجازی هم زیاد شنیدید در باره استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان حتی میتونن ان شاءالله پیش ببرن اگر سوال بیشتری هم در این موضوع بود ما در خدمتتون هستیم و برای این موضوع هم من ازوردی به شما مزاحم آقای معلص جمالزهی بودم که تلاش کنیم که این شبکه را ان ایجاد کنیم با کمک هم دیگه و این ظرفیت بزرگ منطقه رو تبدیل به یک فرصت شغل و محصول برسونی میشه. متشکر سپاس حوزاری ما آی دکتر آی هقیتیان. ما خدمت خانم بخش دارم باشیم اگر فرموشی دارم. دلان همین فرمان در محصول پیشنهاد دکتر هرزاری حالا محصول خانم سابعت کنم؟ ده. باید <مانت> میکالو دوستان امروز دو کلوی کلمه ایدا جمع شدن اگه امکانش باشه بعد از یه توم جلسه یه برمان بازی داشته باشید که دوستان هم تکشیف بیارن حالا همون و ایدون شیلات مرکز دقیقات هم در ساتور بازی داشته باشن از امروز با شما انجام دادید خوشحال خوشحابی جمال و دخمت شما باشید بسیارشتان بشیارشتان بشیارشتان به بسم الله الرحمن الرحیم. و زن من از این جلسه چون از من در این وقت هم چه در جریان هم جوای این جلسه بود که و ما و کل نصف محدوود من سرزمین اصلیه و ونس هم سرزمین فرعیه و جریت های هم داره من یه کلیات سطح روستا میگم با بعضی رفتال و مدیرانم گزارش رو میدم شاید الیپ دو تا از دارم یافته ما در که ااحاب شدهن تقیازات سی و روستا رو داریم از سی و روستا 25 شورا و پنج دارای یک روستا دارای شورا و فاقد سه رستامون خالی از سکنه است که جمعیت این سی و چهار رستا در سرشمالی سال ۹۵ یعنی مسبب ۹۵ هزار و چهار هزار و نفر می باشد اما با توجه به افزایش جمعیت و آشینشینی که این رستاها داشتن الان بر اساس اون جامعه آماری که الان دیاران بحانه بهداشتاره ما قریب به هفتاد هزار جمعیت در این و چهار خدمتون را اعز کنم که یکی از ارماناتی که هر ما جماع استانه یعنی توضیح دادن در خصوص اینکه عملکرد دیار و وضایف دیار و شوراه ها نکرده و مثل کماکان، مثل قبل، باید وضایف خودشون رو انجام بدن اما سالی که حالا برای من بخش داره آیا همچنان همونجوری که وظایف شورا و دیاره با آیا صدور حکم دیاره هم و احکام با خود بخش داره و یا در این وزینه مثلا خرقی رو ایجاد شده؟ و همچنین با تجمیه که ما پایان سال هستیم، تایید بودجه متمم و تفریخ بودجه دیاره یا ما الان برژ آخر برژ 11 هستیم و هنوز مطمئن بوجی ما امزا نفشده خودتون استهزار داریم که مطمئن بودجه و تفریر بوجه بخشداران انجام میدن. اما با به اختیاراتی که الان و سببات شوراها به انتباه و منطقه آزاد شده الان این بحث تفریر بودجه و مطمئن بوجه من از هر کسی هم که در منطقه آزاد میزن. ببخشید ده بخش انجام میدن یعنی چی من؟ یعنی با, بخش با بخش الان بخشدار با تعلیه میکنه. بخشدار از چه منظری تایید میکرده خانم بخوا مصوبه آن... شورا رو تایید میکرده بله، درست مصوبه شورا هیئت تطبیق تایید می‌کنه خب چون عر الان ما موکمل رو بدیم خدمت شما عرض میکنم. روستاهایی که در محدوده حالا شما بفرمایید من توضیح می‌دم روستاهایی, در روستاهایی هستن... که در محدوده روستاهایی که در ببینید تفریق بودجه متمم بله. بودجه بندی تفریق متمم بله. اصلاح اینها از اختیارات شورای اسلامی روستا یعنی دهیاری ترتیبش رو آماده میکنه، شورای اسلامی روستا تصویب میکنه، به عنوان یک مصوبه عادی در هیئت تطبیق بررسی میشود. اگر هیئت تطبیق ایرادی نگرفت به منزله تایید تلقی میشه مورد عمله یعنی اینا به بایده بایده بله اینا یه مسوابه عادیست میاد توی حیط تطویق بررسیم. بررسیم بله حیط میاد بررسیم که به عنوان یه مسوابه عادی کمیته انتخاب معناتا روزات انتظاری که ما از معناتریه داریم. ببینیم چه وایسادانی بعضی وقتا مسائل و مشکلاتی هست در سطح روستاها یا مصوباتی میشه با تعجب اینکه اغلب وقتی بخشدار عنوان به هر رئیس جلسه در کمیته بود، با تعجب اشرافیاتی که در روستاها داره م... چون می‌دونید خیلی از های شما سواد شما خیلی حرفو می‌زنید گفتید ما از این به بعد، حتی ولگزاری بشه که اون بلاخره نوع نگارش و ادبیات مصببه ادبیات خیلی خوبی باشه که بتونن هم شفاق باشه برای کمیت اندبا اما خیلی از شعره های ما شاید رو نتونن رایه کنن و همیشه بخش هم با به اشرافیتی که در منطقه خودشون، در اصطاهاشون بر نیاز های داشتن خب، دستشون خیلی راحتر بوده بر بحث تحریف و یا رد به اما انتظار ما اینه که اعضای کمیته انتباه بیشتر در سطح اوستاهای موردیان و بیشتر با مشکلات مردم آگاه باشند که بتونن سری تری و شخاف تری مصاببات رو در کومیتی انتباه داشته باشند. باصلی مصوبات من یکی دو تا مثال می زنم برای شورای مثلا شو یکی از مصوبات به مورد شده بود در مستوی اسمنهباد بحث کمیته نامبزاری، شما مثلا یکی از مصوباتو که اعلام کرده بودن که برای بحث نامزدی خلافون‌ها کوچه‌ها رو یوانای مستوی اسمنهباد بود شما بحثو که با توجه به تعیید کمیته نامبزاری شهرستان ما اصلا چیزی به نام کمیته نامزدی شهرستان اجرا شهر داده اما شهرستان ما هست کارشناس های فنی فرمانداری گزرم از شهرداری فقط یک کومیتی نامبزاری شهر هست که در شهرداری مستقره که اونجا برید ما در شهرستان اصلا کومیتی نامبزاری نداریم یا بعض زمین های چمن مسئولین ها بعضی وقت‌ها ادارات میان یه یعنی برای داده میشه قراردادی تثبیر نشده از بحاظ قانونی حق با شما شما این بات قرارداد ادارات هم باشه اما با توجه به مسببه هایی که حالا گزرانده میشه و تعداداتی که حالا ادارات متولین میدن ما کار دستت سطح روستاها با بوجه های خیلی کم بخاطر اینکه کار روستا و زیرساختی روستا رو انجام این کارا رو انجام داریم اما ارآن در حال حاضر در منطقه اکثر این مسابق از حاضر نامونی درسته رد داره میشه ولی خب اینجوری که کار را برای ما میکنه. چون بعضی وقتا قانون بالاتر خلالاتر از هر چیزیه اما در خیلی جاها و هر حال من مدیباد یک افتیاراتی هم داشته باشم تا بتونم اون کارای زلزاکی رو هرچی سریعتر انجامدم به کومیتی انتباه یک تعاملی با مسئولی مالی ما و بخشداری داشته باشه که بتونیم کارا تساری پنجام بیمان تعاملی دو جانبه بردار, بردار بسیاره اندرس من یه توضیح بدم عرض به حضور شما که هیئت تطبیق مصوبات منطقه آزاد که خب من خودم به شخصه بش به اسم حیعت تطبیق منطقه آزاد نگاه نمی کنم. چون اعزاش قبلا هیئت تطبیق در حقیقت به مستقر در فرمانداری بودند یعنی آقای شاهبخشی گورگिच ایشون نماینده شورای استان بوده زمانی که هیئت تطبیق در فرمانداری در حقیقت فعال بوده آقای ملکوتی فر هم ایشون هم قاضی بودند نماینده قوه قضایی بودند در هیئت تطبیق در زمانی که در فرمانداری وجود داشته بنابراین این ترکیب تغییر نکرده عملا نماینده قوه قضایی همونه نماینده شورای اسلامی استان همونه بنده هم در زمانی که هیئت تطبیق در فرمانداری مستقر بود به عنوان کارشناس خبره از طریق دفتر امور شهری امورات حیط تطبیق رو رسد میکرد بنابراین با توجه به اینکه ترکیب تغییری نکرده علل قاعده سیاست های اجرایی هم نباید تغییر کرده باشه و نکرد یعنی هر آنچه در شوراهای اسلامی روستا در شوراهای اسلامی شهر از نظر نوع در حقیقت رسیدگی ما به نگاه می‌کردیم در شوراهای اسلامی روستا هم الان همون رو ما داریم سیاستگذاری می‌کنیم منتهای مراتب نهادهای نظارتی سرکار خانم به جهت تعدد مراکز اجرایی الان در حال حاضر خیلی روی شوراهای اسلامی روستا و ها فعال نیستند از نظر عمل کرد یعنی چی یعنی شما در این همه روستایی که در کل استان وجود داره شاید ما 4 پنج تا روستا رو داریم که سازمان بازرسی اومده رفته نگاه کرده مثلا کوم اومده رفته نگاه کرده ما دیدیم در حوزه کم چه اتفاقاتی افتاده در حوزه برخورد با دهیار در حوزه برخورد با شورای اسلامی بالاخره اتفاقاتی افتاده من ارز کردم در ابتدای ارزم که ما در حقیقت در حال یک گذاری هستیم که به مرور این مصوبات رو در حقیقت بیارین به سمتی که حداقل ادبیات و نگارشش منطبق با قانون باشه که بعد بتونید شما ازش دفاع بکنید. ضمنی که عمل کرده یا تطبیق رو هم نهادهای نظارتی برش حاکم هستند و در حقیقت بررسی خواهند کرد. ما دنبال این هستیم یعنی علاوه بر راهندازی امور جاری روستا و شورای اسلامی روستا یک گذاری برای تطبیق نگارش مسوابات و ماهیت مسوابات به سمت مبانی قانونی هم در حال تکوین هست در حیات تطبیق منطقه آزاد یعنی ما هم امور جاری رو نگاه می کنیم هم یه جورایی داریم کم کم مقررات رو برای دوستان جا می این دوره آموزشی شاید الان خیلی دیگه به سخندانی برگشت. ولی در آینده قطعا ما دورایی خواهیم داشت با اون مبانی که کرس کردم خدمت شما و موضوع موضوع خدمت دوستان میریم یعنی در مثلا حوزه زمان خواهش کرده بودم ازایی حقیقتی آن که مثلا ما م یه جلسه داشته باشیم توش دو محور مثلا آینام مالی رو فقط صحبت بکنیم با دوستان یا زمین رو فقط صحبت بکنیم با دوستان. چون اینها نکات مهمی است میکنم اینی که ما الان جواب ندادیم به جایی دلیل بر این نیست که ما کامل داریم قانون را میکنیم یه روزی هم از من شما میپرسید این دنیا نپرسم اون دنیا قطعا خواهند پرسید اما در مورد فرمایش شما عرض به حضور شما که این سیاست کلی هیئت تطبیق هست ببینید در یک آن چیزی که ما در من قبل از اینکه بیام رصد کردم که ما کدوم مسلوبات رو رد کردیم کدوم مسلوبات رو تایید کردیم در حوزه روستایی نکته اول ما تقریبا از 90 درصد روستاها مصوبه نداریم آقای مهندس جمالسی گفتن دو جلسه در ماه الزامه برای شورای اسلامی شهر که جلسه روستا که جلسه داشته باشه یعنی حتی اگر شده بشینید با هم دیگه یه چای هم بخورید، باید حتما جلسه رو برگزار کنید. دو جلسه در ماه باید صورت جلسه بیا. این یک. دو بر اساس این نامه مالی خیلی از وظایفی که برای شما برای دهیاری تعریف شده مستلزم تایید شورای اسلامی روستا است. یعنی چی؟ یعنی هر معامله‌ای که شود دهیاری می‌خواد انجام بده با شورای روستا در حقیقت این رو بررسی بکنه بنابراین اصلا پذیرفته نیست که شما بگید یه شورای اسلامی روستایی در طول سال حتی یه صورت جلسه به هیئت تطبیق نفرستاده این پذیرفته نیست این نشان از اینه که شورای اسلامی روستا نظارت نمیکنه یا دهیاری پیشنهاد نمیفرسته. عرض کردم دو جلسه در ماه الزامیه حتی شده باشین با هم چای هم و بعد صورت جلسه بنویسید یهو الان چیزی چای خوردیم مصدبی نبود خداحافظ شما تمام ولی دو جلسه در ماه برای شما الزام است که جلسه برگزار کنید ولی این دهیاری عملکرد مالی دارد این دهیاری عملکرد خدماتی دارد این دهیاری واگذاری اختیارات دارد اینها همه چیزهایی است که شما باید در شورای اسلامی روستا بررسیش بکنید بنابراین من اصلا به عنوان یک کارشناس که 27 سال کار شهرداری شورا انجام میدم و قبلا کار روستایی انجام میدادم نمی توانم بپذیرم که هیچ مبحثی برای طرح در جلسه شورای اسلامی روستا وجود نداره ما در حال شکل یعنی در حال جهددهی شوراهای اسلامی هستیم که اولا آقا این وظائفته این وظائفت رو باید انجام بدهی بالاخره. یک نکته نکته دوم در خصوص صدور حکم دهیارا من ارز کنم خدمت شما ببینید من شفاف ارز کردم از دیروز شاید خیلی تو ذهن من آمد که خیلی هم چیز نکنیم راجع به این مسائل ولی باید گفت واقعا ببینید قانون تصریح داره یعنی ماده 65 قانون احکام برنامه های توسعه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصریح کرده تبصره دوی ماده 65ش گفته آقا اختیارت فرموندار بیاد از این در استانهای مختلف برداشتهای مختلف می شود این موضوعی که وجود داره عرض کردم خدمت شما در وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا هیچ شک و وجود ندارد، هیچ تغییری هم نکرده وظایف نظارتی رو بذارید برای منطقه آزاد و وزارت کشور که با هم حل کنند بنابراین این به شما هیچ دخلی نداره که ناظر شما کیه الان در حال حاضر منطقه آزاد به موجب قانون احکام دائمی و فرمانداری و مجموعه وزارت کشور به استناد قانون تشکیلات ناظر عالی هستند هر دو هم نظارت میکنن اگر میخواد ردبندی بر وزارت کشور و منطقه آزاد مترتب بشه باید ما ثبت کنیم که این در حقیقت مجموعه قوانین و مقررات شفاف بشه براش رویه نوشته بشه شیوه نامه نوشته بشه دستور و عمل نوشته بشه و بر مبنای اون در حقیقت ما بتونیم کار نظارتی خودمون رو انجام بدیم الان حکم بر این است که مجموعه فرمانداری به عنوان ناظر عالیه دولت ما قانون داریم به اسم قانون افسایش اختیارات فرمانداران، استانداران، فرمانداران و بخشداران این در زمان دولت آقای خاتمی قانون شده از مجلس ابلاغ شده به موجب اون اختیارات ای استاندار در مج... در حوزه استان، اختیارات ای فرماندار در حوزه شهرستان و اختیارات بخشدار در حوزه بخش به عنوان نماینده عالی دولت تسبیت شده این محدوده جغرافیایی در حقیقت تا این تکلیف شده است الان بر مبنای اون دولت به عنوان ناظر آلیه ایفای وظیفه میکنه منطقه آزادم که موجب قانون احکام دائمی الان در حوزه سرزمینی خودش در حقیقت مکلف است که نظارت بکنه و داره کار میکنه بنابراین این جلسه رو ما با این در حقیقت روی کرد داریم بهش توجه میکنیم در دو محور رویکرد اول وظیفه شورای اسلامی شهر و دهیاری هیچ تغییری نکرده بر مبنای کتاب مجموع قوانین و مقررات دهیاری و قانون تشکیلات وظایفی برای شما تعریف شده به عنوان شورای اسلامی روستا و به عنوان دهیار مکلف به اجراش هستید اگر اجرا نکنید از شما میپرسن می پرسن میکنن حالا یا من می یا عرض به حضور شما که فرمانداری می پرسه به حال شما فرق نمی کنه و پرسیده میشه. یک مطلب عرض به حضور شما که در مورد نامگذاری که شما فرمودید سرکار خانم نه من نامگذاری اتفاقا آوردم که بگم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تقریبا سی چل درصد مسلاباتی که ما رد کردیم فقط نام رد نکردیم ببینید؟ رد نکردیم مصوبه رو مصوبه رو اجرای مصوبه رو منود کردیم به تایید شورای نامگذاری یعنی چی یعنی ما اختیارات در حقیقت اختیارات شورای اسلامی روستا رو مستند به قانون پا میدونیم بند 46 اگه اشتباه نکنم ماده 10 میگه پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تأسیسات روستا به شورا این وظیفه دهیاره جهت بررسی یعنی چی؟ یعنی آید دهیار مکلفه یکی دو تار رد کردیم چرا؟ پیشنهاد دهیاری وجود نداشت قانون میگه دهیار باید پیشنهاد بده درست شد؟ پیشنهاد نامگذاری معابر اماکن و تأسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آن به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم یعنی شما در نامگذاری ببین ما رد, رد کردیم رد نکردیم گفتیم آقا برو مراحل قانونیش انجام بده یک پیشنهاد میکنه دهیار دو شورای اسلامی روستا مصوب میکنه سه میفرسته برای هیئت تطبیق چونیه مصوبه عادیه چهار میفرسته برای شورای اسلامی بخش چون در ماده چلوشیشه در بند چلوشیشه ماده ده قانون تأسیس دهیاری خودکفابش اشاره شده پنج یک شورایی در, در حقیقت فرمانداری ها تشکیل می شود به اسم شورای نامگذاری آینامه داره آینامه هم مصوبه هیئت وزیران داره از طریق وزیر کشور ابلاغ شده اونجا چی میگه؟ میگه می, گه؟ می گه آینامه نظارت بر نامگذاری شهرها ویرگول. ویرگول خیابانها ویرگول اماکن و موسسات عمومی یعنی فقط شهر نیست میگه شهر، خیابون، اماکن، مؤسسات عمومی. درست شد؟ این آیین‌نامه در خود آیین‌نامه که شما تشریف ببرید ارج به حضور شما که مطالعه بکنید، دو سه تا مطلب وجود داره در این آیین‌نامه. این رو به دستی من آورده بودم چون بخش عمده‌ای از این مصوبات که ما به متن نقد این صحبت داشتیم راجبش از این آیین‌نامه در حقیقت برداشته شده. اونم اینجاست توی این آیین نامه که به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است یه وظیفه‌ای برای شورای نامگذاری در حقیقت تعریف شده میگه مراجع نامگذاری یعنی شورای اسلامی روستا موظف یک نوسی از کلی مصوبه خود در زمین نامگذاری و تغییر نام رو هر سه ماه یک بار به منظور بررسی و تطبیق با اهداف آینامه نامه نامگذاری به شورای نظارت مربوطه تحویل کنه شورای نظارت مربوطه اینجا کیه شورا نظر شهرستان بنابراین آن چیزی که ما در مصبب قید کردیم یک رد کردن مصبب نامگذاری نیست یعنی ما نامگذاری اصلا جز وظایف شورای اسلامی روستا میدونیم من تا گفتیم اجراش که اجراش وقتی که شورای نامگذاری شهرستان اومد و راجبش اظهار نظر کرد چرا؟ چون نام نامی که بر یک مکان عمومی گذاشته میشه باید واجد یک شرایطی باشه طبق خانون الان ما در مثلا یه شهری اسم میبرم اسم شهر رو، اومده مصوبه در حقیقت گذرونده شده اسمی گذاشته شده بدونه که ببرن تو شورای نامگذاری شهرستان در حقیقت رفته پلاکوبی شده بعد شورای نامگذاری شهرستان اسم رو رد کرده. اون اسم دارای بار بوده، یعنی چی یعنی آمدن گذاشتن سارانی اینجا مردم سارانی رو خیلی دوست دارن. بعد اومدن پلاک سارانی رو کندن شورش شده. درست شد؟ بنابراین نامگذاری قبل از اینکه شورای نامگذاری شهرستان تکلیفش بکنه اجرائی نباید بشه. ما نامگذاری رو رد نکردیم. اجراش رو منود کردیم در حقیقت به تایید شورای نامگذاری شهرستان. بعدم یه چیزی شفاف به شما بگم هر آنچه تو ذهنتون هست چه درست چه غلط یعنی شما من یه ایرادی میگیرم توی یه تطبیق میفرستم برای شما به عنوان شورای اسلامی روستا درست شد یه فرهنگی تو ما ایرانی هست نه بلد نیستیم بگیم کلا ایرانی ها این شکلی ان نه بلد نیستم بگن آقا شما اگر فکر میکنی ایرادی که من در هیئت تطبیق گرفتم ایراد اشتباهیه اصرار کن خیلی چیز سختی نیست یک مرجع بالادستی از يا تطبيق وجود داره که مصوبه رو بررسی خواهد کرد اصرار کنید بر نظرتون اگه واقعا فکر میکنید درسته این یک دو ما در تمام ایام سال و در طول 24 ساعت آمادگی داریم که نظر مشورتی بدیم در حوزه شهرها که ما مستقیم کار میکنیم در دفتر امور شهری شورا همینجوریه شما می‌تونید بپرسید همکارای ما در دفتر امور شهری هر کدوم هر دو تا شهری رو به یک نفر دادیم تلفنشون هم بازه در حوزه مصط شوراها در حقیقت ما مشفرت می دیم قبلش با هم صحبت می کنیم, هم همدیشی می کنیم حرف میزنیم اینجا هم همینه هیئت تطبیق مسبببات آمادگی داره هر احساس می کنید یه مصبه ای شاکاش دچار هست برای شما یک در نظر ذهنی در حقیقت چه آقای دهیار که می خواد پیشنهاد بده و چه شو اسلامی اصلی که میخواد به آمادگی داری مشفرت ببدیم. ببخشید طولانی شد حالا اگر سرکار خان فرمش ندرد شما خب دهیاران رئیس های محترم شورا هر کدوم ما در محدودیتی در نوع سوال و تعداد سوال نداریم فقط سال تکراری نپرسید معرفیم <تصفح> من می‌گویم است که ما می‌خواهیم انجام دهیم. این کاری است که ما می‌خواهیم انجام دهیم. این کاری است که ما می‌خواهیم که ما که که تا ته 12 اون قانونی که ماده 3 اساسانه تشکیلات برای دولت یابیده میگه دمون میشه کی تیاری حق در واقع به هم اصول مرام نداره یک با سه قصور عوارض سوابی که اولا طبق ماده 19 اساسنامه تشکیلات میگه ها داره در در واقع اعمال نمیشه این دو با که این نمیگیرید بر اساس که میگه چیزی که خود دیگه خودی مانع تعادل مانعی که هنوز دیگه گیه که اکنون داره این عوارض تدوین پروانه دیگه به صورت خود سازمان دار می‌گه فقط صدور پروانه بقیه عوارض تونو میگیری شما آره ارثشون فقط پروانه ساختمون ساختاری نظارت هم که خود دست یگان احیا سازندگی هستش برای صورت میگی تو باسه اینا عادیه شنوازیه مشارکتی باسه تاخیره یک پروژه متهم بود که اول نزدیک یک ماهی که دیاری تیست باید واقعی دیاری کم سندر گمه اولا ما بودجه داریم و امریزیان کردیم تنم آماده هست ولی به خاطر همین سردار جمهوری مصالحات ما توضیح دادم دادم خدمتیه توضیح دادم خدمت شما این درست اشاره بر کویت اعتماد سازیه مصوبش مصوبه شورای اسم میگیرید بیفرسیده و یاد تطبیق تایید میکنه مصوب خطی یکی دیگه هم که اشاره میکنن واسه روش به تیاری ها عملا من از این سه سال دیاری هستن هستم خودم رشت مرتب به خودی شصادی هست افغانستان شصادی هست از دانشکانه کلی چیزی که واقعا من توی همین سه سال گذشت، مخصوصا باز از همان تعقیز اختیار واسه رونوش هست. عوامل کارهایی که در حوزه سازمان، واقعا کار خوبی صورت گرفته توی همین یک سال هفت، دو سال هفت، توی حوزه دیگرای مختلف سازمان اعتمادی که توی تست میوفته خیلی خوبه، خیلی هم, هم جالبه. ولی نشدی دیاری، جایگاهی دیاری، جدا از اون قانونی که واقعا در واقع مجلس آزاد کشور برای دیاری مشخص کرده، اولا تیاری چه داره؟ جدا از روزانی که شما اشاره کردید شفافه واضی مشخصه ولی کاری که داره سازمان انجام میده نقش دیگه‌ایه مثلا چیه فقط این که باشه نظارت کنه کار کنه اینا در آخر نامه مشخص بشه در واسه بودجه بندی بودجه نویسی دقیق بودجه ها بودجه یوزدار اصلاً فقط حالا این بودجه رو بر چه مبنایی استاسه نویسی ما استانداری باشه مال مرد که از دست ما گرفته شده ساصل هم داره خاطر یه درآمد خوبی هست میتونه مبنای در و ادایته و میوه‌ی روستا باشه چرا اینطوری نیست اینم یک وزیری واسه من دیار کجا هست خاطر من دیار نیست ولی یهودی که فقط فردا ببینم با چه کار کنه در واسه ترتیب اثر مصالحات شوراخان دیار تقدیم مثلا ببینید که اگر مسوغان دیارتی مصالحات شورا هم از عامل دیوجه ایرانی راضی پیمان سازمان این میوه‌ی قابل آماده هست و آسفالت کنه عملاً این ترتیب اثر این داده میشه تو سازمان یعنی نه اینا واسه من یه سوالیه اما حالا من نزدیک به 20 سال به طور آبا دارم. نامش هم حالا به صورت رسمی پروسه داره میشه. غیر رایگان که از طریق بنیاد فرهنگ به دیاری تعلق بگیره. من در فاز میذود فنی نقشه چکن فنی هستن. كل برایی که من آماده، نقشه تا یک هر دانه به سازمان آموزشا مونده چرا؟ درسته، یک بوجه استانداردی بروجو آب داریم. یه بوجه حق میلیاردی ولی در واقع مجلس سازیو به داشت کارخومی داره چون که من میگم نقش که جایگاه دیاری بر اساس قانونی کسان همه از که واسه من همین رنگه امامه حالا تا یک آفیکم من نمی کنم حالا بخش امده اینوهای من از چمارزهی بفرمایند ولی من عرض کردم خدمت شما یکی یکی ما سالا جا بودیم که خیلی تا مطلب نشه من عرض کردم خدمت شما که ببینید این شیوه تعامل در حقیقت با توجه به اینکه الان سال اولی هستیم که عملا تو نظام بودجه‌ریزی شما نقش منطقه آزاد باید ببینید این رو باید ببینید در حوزه شهری مثلا تعریف شده در حوزه شهری الان منطقه آزاد داره پروژه محرک توسعه تعریف میکنه برای شهر چابهار یعنی چی یعنی شهر چابهار درآمد خودش داره بودجه خودش داره عوارض خودش داره کارش رو انجام میده منطقه آزاد فعلاً داره یه پروژه محرک توسعه اونجا تعریف می‌کنه این دو شما اجازه بدید با دکتر کردی به عنوان مصوبات این جلسه در به عنوان نکاتی که تو این جلسه مطرح شده در این درست میگی شما این دغدغه وجود داره که نحوه تعامل شما از حیث اعتبار ببین نه ببین از نظر مقررات و قوانین و وضعیت شما در حقیقت شما هر آنچه دهیاری قانون دهیاری برای شما تعریف کرده شما باید انجام هیچ بحثی نیست این دو تا مطلب رو ما به عنوان نکات مطرح شده تو این جلسه چیز می کنیم احتیاج داره با رئیس سازمان منطقه آزاد و مدیر رئیس منطقه آزاد در حقیقت راجع به این ما بحث بکنیم، صحبت بکنیم، این رو حتماً به عنوان یک در حقیقت این جلسه ما مورد پیگیری قرار خواهیم داد. درسته ابهام درستیه، ابهام. من اول عرض کردم خدمت شما، مقررات وجود داره در اجرای مقررات ابهاماتی وجود داره. اینا رو باید بشینیم یکی یکی راجبش بحث کنیم. به عنوان مثال منطقه شروع کرده دیگه. ببین در حوزه زمین دار میره وزارت راه شردی توافق میکنه خب در حوزه ارشاد هممون دیدیم دیگه رفت توافق کرد مدیر ارشاد گذاشت اینجا شو سازماندهی کرد یکی از چیزایی که در حقیقت باید تا این بشه هم حالا یادداشت میکنیم اینو باید دکتر کودی مطرح میکنیم شو اعلام میکنیم بفرمایید جان خلیل باشم به نمایندیم باردا سلام با حسینه و سروران محترم و مهمانان عزیز به خدمت مدیران بستانداری امشادی با قسمت من پرورستم رئیس شورایر رمید. خدمه شما بحث مصاببات فرمدید. این باید شما بعد مهاز قانونی شما چیزی که درست. درستید. ولی شما شهری در ایمان. چیزی که به شهر آمدید. اون تجربه کاری و همیشه نگاه ها با شهر و چیزها بزرگ رو ببینید. که یا همینجور که تانکشتر فرمودن به قصد سوادشون در محدد نیست که اون نگارشی که ماده‌لیزر شما هست بیشترشون در سازمان خاندار نمیشه قانوناً پیش‌بینی شده شورای منطقه درنده خاندار نمیشه اون نگارشی که شما لیزر شما هست شلون نباشه ما این درخواستی داریم که بر خلاف تا زمان که ولی خطا بیفته و همه به آشنایی به روند کاری که ماده‌لیزر شما هست این صورت باشه موقعیت تدریج جلسات ما این خواهشی داریم البته شاد از قانون نیازی نیست اونجا ده حضور داشته باشه ولی اون شوراها رو دعوت بکنیم که بیان به هر نقطه بگن ترشون بگن برنامهشون بگن که نیاز به رد مصوبه یا اشکال گرفتن مصوبه و اصلاحی بن صورت پروسه زمانی زیادی توبلی که نبره به یا و اثر امکان با شعر متربیان اون در اون جلسه حضور داشته باشه همینجوری بهشونن هم صحبت کرد به زیادی در سطح به خیلی اونجا به تا 20 سیکل رد نشه و فارد نشه و زمان زیادی نبره و پار انجام شد این موارده بود که گفت نیازی نیست شاید دوستان دیگه هم دیار رمینم از شاید همین بحث بوجه و این مسائلات و حسینی کرد و پیشمینی ازار 1400 گفت گفتن اینشانه که توضیح و یه مورده دیگه که فرمودی بحث نامگ گفتین شعرهای نانگزاری معاور، بلنید نگفتین از شعرات کی هستند؟ هایا سطح شهرستان کیا هستند؟ که ما در همون مسیر و همون سیکل رو بریم موضوع رو ادامه داشته باشه و پیگیری بکنیم و هم مورد آخری که خیلی نشتادست کنم، خود مدیران منطقه آزاده متاسفانه در جلسه ای که حالا ما انتظار داشتیم که مواردی دیگه هم شاید بحث بشه این چون بعد از یک سال از مسوابه بهمنمای پارساد 98 ارحاق شده به منطقه آزاد جلسه و اولی نشستی که با این کیفیت و به این صورت گرفته شده که مدیران منطقه آزاد با شورها و دیاران به خودشون ولی متاسفانه مدیران و ماوینین منطقه آزاد جلسه رو ترک کردن و رفتن و تمام موارده دیگه هم که میخواییم مطرح کنیم متاسفانه باکی مطرد، فقط بوضوع بسید مصابباتی ها. ما یه خواهشی که داریم، همینجا یه درخواستی داریم از مدیران منطقه آزار با گذشته یک سال، دیگه ما میگیم که دو ساله، ستی ساله دیگه شورا در درمان 6 سال هم عمرشون بیشتر یه نیست، میوفته به شوراهای بعدی. ما یه خواهشی داریم که در تون همین سال تا پایان سال 99، یه جلسه با بعضی از مدیران بذارن پلوسته های منطقه در محدودے آزاد به چه صورته خدمات ایش به اده کیاس برنامه کاریش به اده کی است و بعضی مدیران من جمله آب هست، برق هست و بعضی اراضی مخصوصاً تو منطقه راجی شهر جاوور که همین چپوندن به منطقه آزاد بچی مازل دواب به عنوان حاشیه‌ای عنوان کردن و مردم در مشکل هستند بعضی مسکن شهرسازی هست و خود بنیاد مسکن هست بالاخره اینجا کی میفرمونی دید مردم اینجا دچار مشکل هستند بعد انشاءالله که مانتا باز بر بکنه جلسه با جلسه کلی با مدیران قبل از پایان سال گذاشته بشه که نخوره به سال بعد که استفاده کنم اردون در جریان مسائل باشه واسه مثلا و اونجوری باشه که گفتم بخیر ما رو در جلسه با بخشدارن دعوت کنیم بهتره اینقدر که مشکل باشن. من بیشتر از این وقت نگیرم و فقط دوستانه صحبت کردن و بس راستش من موردی رو خیر متواظع بونم. جلسات شورا را فرودی۔ وقتی اعتباراتی د دیاری در ماه میاد تو من شورا چی جلسه بلی چای نه به خپل کو نداره. انا چای بلی چای که همون جلسه به را چای خوردی خو خداफे. بلخره با ی اعتباراتو خواهش ادارې مرکز ما بحث هم خوده اگر قرار کې نه ورو در نظر شت، به با اعتبار شورا و حق اووق به شورا, شورا ها رو بشمین کنیم تا حالا هیچ شورا های حق جلسه رو شلوم 20 سال به چهار پ دوره خودم مضم و قبلا هم شورا های بودند ده 10 16 این سال شخصفا به بعد من مضوعت شورا رو تا حالا یه ریال حق جلسه رو نگریم و نهخوا بگیریم نیاز یا نیست بحث بحثی بود که بحث بودی جلسه حتما بگیرن و بعد اعتبارات که وقتییه میون توانان همجور جوازه تشریف داره دیاری که مثلا مال رمی وی, وی همه جامعه مسائل یا هم و این همه مشکلات در پایان ما نمی تند همینونه گنده انکه در 36 تا فقط تذیل جاری حقوقش رو نگاه اشتنا که ماشینالات شو حالا دیاریای بزرگتر هستند اون بس تدیس از وجاه دیگه و دیاری که داره مسائلی هست که مشکلاتی هست که با این در اتاقش باز باشه و یه چیزی داشته باشه. دیگه دیگه, دیگه سخت نگیریم. که من جلسات پر می‌دارم. معمولا مشکلی نداره. خیلی ممنون مرسی شما فرموشیده. من دستی که من توضیح بدم نه بذار یکی یکی بریم که بعد آ دهیار دیگه آدایی چقدره؟ بودجه چقدر دایده؟ یک ملیار. میشه ما چقدر؟ ماش مایی چقدر؟ یک ما ما ملیار تو میشه مایی چقدر؟ <متحدث> نه، بودجه، بودجه تقسیم <متحدث> بردوازدهش کنید چقدر میشه؟ ماه هشتاد تومن، هشتاد و دوستت تومن خب، چقدر در وردی آقا دهی این میشه ماه چقدر؟ خب، حالا من ببین من آدمیم، من خیلی آدم چالشی هم، شما من با چیز خیلی همدیگر هم رو نمیشتاسیم ولی با شهرداری مشورت بکنیم من خیلی عهد چالش هم زاتن. آره من خیلی آدم چالشی هم. ولی اینجا خیلی, خیلی خیلی چیز نیست اگر شهرداری بودی عرف میزد بگفتم نه عرض من چیز دیگه است آره دیگه حالا میخوام من بحثم چیز دیگه هست اگر شهرداری کوچیکی عرف میزد بلا فاصله بش میگفتم میگن شهرداری خود این قانون هم شما بخونید قانون تأسیس دهیاری خودکفا یعنی چی؟ آ دهیار به من بگه که چه کاری انجام داده در حوزه ایجاد منابع درآمدی جدید. شما که میگم چای بخورید، چای بخورید فکر کنید که چیکار باید بکنید برای این روستا، نه که بشینید چای بخورید که. بشینید فکر کنید راجب این روستا، چه ترهی دادی شما توی این چند سال. نمیخوام وارد چالش بشیم. بنابراین اگر قرار باشه که وارد چالش بشیم خیلی حرف داریم با همدیگه بزنیم ان اگر لازم باشه و تشخیص بدن آقایون چون ببین من من دبیر یه تطبیقم اولم صحبت کردم ولی همین کتابی که جولای من از جمالزی است جمال من الان 6 ماه بعد از اینکه تطبیق تطبیقو دادن دست من آیمندس اولین روز من از شما چی خواستم کتاب رو گرفتم مفصل خوندم زمانی که من 11 سال رئیس گروه روستاییه بودم رئیس گروه عمر روستایی بودم قبل از اینکه دفاتر شهری و روستایی هم جداشند خیلی از این روستاها رو که شاید خیلی ندیده باشن من ست دوستان دیدم روستا میشنسم چیه بلدم ارز بزرگ شما که منطقه مرتب اصلا وارد این حرفانه نمیخوام بشیم خب این انتقاد انتقاد شما نه این حرف شما هم وارده یعنی الان منطقه آزاد من عرض کردم دوستمونم که فرمودن ما گفتیم واقعا باید بشینیم با دکتر کردی ببینیم در حوزه روستا ایشون چه نظری داره عرض کردم در حوزه شهر تکلیفش روشن یه پروژه محرک توسعه قرار شده تعریف بکنه که به مرور تا وقتی که ما بیایم تر جامعه منطقه آزاد رو اصلاح بکنیم و وضعیت شهرها و روستاها رو بیاریم در داخل بند محدوده منطقه آزاد سازماندهی بکنیم و منطقه آزاد بیاد برای توسعه اونها برنامه بده قبل از اون ما باید سطح شهر و روستا رو یه مقدار نزدیک کنیم به وضعیتی که توی منطقه آزاد وجود داره این پروژه پروژه محرک توصد در روزه شهری تعریف شده شاید آید دکتر کردی باید اینو میگفت نگفت منطقه آزاد در سطح شهر چابار حدود 400 میلیارد تومن الان پروژه تعریف کرده داره انجام میده 400 میلیارد تومن خب هر چقدر ما برنامه داشته باشیم در حوزه روستا منطقه آزاد قطعا کمک میکنه حمایت میکنه اینو ما باش صحبت میکنیم ولی شما هم در جریان باشید برای توسعی روستا باید برنامه داشته باشید تا برنامه نداشت باشید همکاری و همه اونجوری نیست که شما دلتون بخواد. ارز میکنم در حوزه شهر چابهار اگر تره جامعی وجود نداشت اگر بلوار ساحلی وجود نداشت اگر مقدماتی شهرداری به اسم در حقیقت تملک اونجا انجام نداد و شاید منطقه آزادش موقع نمیمه 400 میلیارد پول خرج بکنه اونجا درست شد در حوزه روستوها هم همین خواهد بود گرچه به عنوان مسبب این جلسه ما به دکتر کودی صحبت قطعا راجع به این خواهیم کرد عرض به حضور شما که دعوت از شورای اسلامی روستا در خصوص مصلوباتی که چالش داره روی هم بذاری تو دستور کاری که اشکالی نداره که دوستان بیان توضیح بدن گرچه توضیحات دوستان ناقض سیاست ما مبنی بر رعایت زوابط و مقررات در بررسی مصوبات نخواهد بود یعنی چی یعنی دوستان تشریف میارن اونجا توضیح هم بدن خروجیش اینه که ما توضیحات دوستان رو میبریم تو چارچوب قانون منطبق می‌کنی ما کار غیر قانونی انجام نخواهیم داد در تطبیق در تطبیق کار خلاف قانون انجام نخواهیم داد شما الان پیشنهادی بردشتی آوردی؟ مثلا یه روستایی؟ یه پیشنهادی بردشتی آورده؟ من حرفی نزدیم ما تو تطبیق گفتیم آقا شما گفتی که این میکروفونو میخوام بخرم من نوشتم چی؟ نوشتم آقا خرید این میکروفون باید در بودجه سالانه روستا دیده شده باشه؟ آین نما مالی هم رعایت بشه. شما اینو باید تو مسببت بیاری. آقای دهیار وقتی پیشنهاد نهاد که میخواهم این میکروفونو بخرم شما باید مسبب کنی. خرید این میکروفون به شرط تأمین اعتبار در بوجه مسبب با رعایت آین مالی بنامانه هست. اینه بنویسی مالی حرفی ندید و دستمان بست. درست؟ بنابراین حتما باید در حقیقت این چیز بشه. شورای نامگذاری که فرمودید آجا اقا این دستورالعمل داره. من میدم های حقیقتی هم بعد زحمت بکنن کپی بکنن و در اختیار شما هم قرار بدن. شورای نظارت بر نامگذاری اماکن عمومی رئیسش در سطح شهرستان های ترکیب ویژه ای هم داره. بذارید من برای شما سطح شهرستانشو بخونم از رو. از به حضور شما که فرماندار به عنوان رئیس شورا مدیر امور کارشناس امور شهر فرمانداری به اسم به عنوان دبیر شورا رئیس شورای اسلامی شهرستان شهردار مرکز شهرستان رئیس ارشاد شهرستان یک نفر از فریختگان در زمینه فرهنگ آدف فارسی به انتخاب شورای فرهنگ عمی شهرستان یک نفر صاحب نظر امور دینی به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رئیس بانیاز شهید اوموی سیرگران شهرستان اینها ترکی بشه ارز به حضور شما اینا میشینن راجب اون اسمی که شما میدیه سا نظر میکنن مسئولیت هم با ارز به حضور شما که فرمان داریست اینم باز جز اون مسایله ببین ما نمیخوایم خیلی چیزها رو الان بگیم که اینجا ما چه چالشایی داریم همین ماده 65 شما اولشو بخونید نوشته تمام وظایف دولت بدید به منطقه آزاد شو؟ اینا رو یکی یکی راجبش داریم بحث میکنیم نه منطقه آزاد توان پذیرش فعلی داره نه ما میخوایم که وظایف حکمیتی دولت رو این شکلی بدیم درست شد اینها تعاملی بین ما به عنوان حالا من که میگم الان در جایگاه منطقه آزاد دارم میگم ما منطقه آزاد تعاملمون با وزارت کشور ولی این بازم تاکید میکنم جایگاه شما رو به عنوان مجری قانون خداچی بهش وارد نمی‌کنه شما باید قانون رعایت بکنید درست شد عرض بظور شما جلسه مدیران جلسه روستایی‌ها در روستاها با این شورای روستا و دهیاران با حالا معاونین اون‌ها هم حتماً جز مصوبات بیاد با دکتر کردی صحبت بکنیم یه جلسه خاص آسیب شناسی ولی همینجا هم تأکید بکنیم دوستان تو اون جلسه هم که میان با برنامه حرف بزنن یعنی ما این خواهش می‌کنیم بذارن ولی مطالبه گری بدون برنامه پذیرفته است. از همی یعنی الان با هم ببندیم. یعنی اونجا وقتی میاد حرف زدی میگه در حوزه فرهنگی مثلا اگه شما میگاید حرف بزنی آیه ما چاکرزی میخواد بیاد بشنوه یا بخواد تصمیم بگیره رأی بده برنامه داشته باشید براش. بنابراین بدون برنامه حتماً آیه قطعا یادداشت بشه که قرار آی دکتر اگر مصوب کردن و کار ان که قطعا با روحیاتی که از دکتر کردی میشناسیم تو این حوزه ایشون خیلی خوب توضیح دادن. من امیدوار بودم که دوستان حتما گوش بکنن سیاست‌های منطقه آزاد رو خیلی شفاف ایشون در حقیقت بیان کرد و انوان کرد منطقه آزاد در حوزه توسعه اجتماعی در حقیقت واقعا خیلی کار کرده حالا ایشون میگم وقتش نبود عدد و رقم بده وگرنه در حوزه توسعه اجتماعی و توانمندسازی خیلی منطقه آزاد قرار و قدم برداشت و مطمئن باشید اگه شما برنامه داشته باشید در حوزه توسعه روستایی خیلی میتونید از منطقه آزاد استفاده بکنید تا وقتی که خودش برنامه بچینه یعنی ببینید در حوزه شهر چابهارم یه روزی خواهد بود که منطقه آزاد بودجه چابهار رو مصوب میکنه و در حقیقت تشخیص میده و تبین میکنه که مثلا شهر چابار خطوط توسعه کجاست چجوری با توسعه پیدا بکنه قطعاً یه روزی کلشو منطقه آزاد انجام خواهد داد ولی در حال حاضر که ما همچین در حقیقت رقابتی برای پیگیری این شکلی نداریم در حقیقت خود من چابهار باید بتونه زیرفیت سازی بکنه که از اعتبارات از توانمندی از امکانات فنی منطقه آزاد بتونه استفاده کنه تو اوضاع روستاها هم قطعاً همینطوری هست چیزیم که عرض کردم های حقیقتیان حتما دوستان شورا در مورد مصوباتی که در حقیقت یه مقداری چالش مسببه داریم مسببه عادی روتین معمولی که ما خیلی اصلا راجع به اون بحثی نداریم و اینها مسبباتی که ما احساس میکنیم دو چهار چالش هست و شفاف بگه مسببه ای که ما میخوایم بهش انقورتی بیایم این مسببه رو حتما دوستان شورا رو دعوت بکنید که تشریف بیارن مباحث و نقطه نظرات چون بهش حالا یا خودشون تشریف بیارن یا خانم بخشدار رو دعوت بکنید تشریف تو جلسه در حقیقت توضیح بدن راجع به اون مسببه و بعد بتونیم چیز بکنیم حتما هم آی حضرت دوستان دوستانم با توجه بکنن ما هم توجه کنیم اگر مسوّبه‌ای رو در ارتباط با دستگاه اجرایی در حقیقت دوستان مسوّب می‌کنن موردی رو حتما باید به دستگاه اجرایی داده بشه و دستگاه اجرایی با حتماً مسوّبه رو ببینه سوال دیگه آی ببخشید آی شما توضیح ندادید آی درو بسم الله الرحمن الرحیم و بالثناء علیه و بالذل و بالقدره Bonjour, دو تا parler à M. Ahmed, le mandataire de la M. Ahmed, le mandataire de M. Malik, de la très chère Eva, monsieur le collègue, monsieur le scribe, monsieur le savoir, je viens de la province de Pamir. Alors, il y a ce mal anglais, ça a eu beaucoup de problèmes تاست راستیت دو تا ثروات این حوالی و ادارات مازی برابر ما هر و هر ما و سازمان هست که نمی‌تونه شما تقریبا تو دفترش بره تا دیوار از اداری در دهان ما قسم تم مسائل را نمیگنا و ایران و ماوردی رو هر ما پیشنهاد میدیم ان شاءالله موفق و این مسائل و مشکلات مطرح و ما که در اوزیه دیاز و امچینیم که می‌دونیم تربا و هوزه کاری اجرا و اجرای جوان سیاسه. اولی دیگران تعلیقات پیشنهادی بود ما یه جلسه کارگاه نوابدی رامیلان داشتیم پیشنهاداتیم آموزشی به یاران باش و راه سلامیه لحیه و همچنین سپرایی آموزشی به سایر تعلیقات ماست هایی که در ماه پیش آمدهاند در سایر روسکان اجاره دارن. این بیشنهادی بود و معاقدی مدیر رامیلان مقرر کے که یا عملی نامالی و موضوع دیگه تعلیب مستحایی هستند در مخصوصا هاشی شهر چاوار که قبل از اینکه این محدود به منطقات تقریبا ها تقریبا اعلام بشه قبل سندش ما هستند راه شهر سازی به بنیاد مسکر محفظ شده و باوزار شده در این کار ساماندهی به چیزی که ما تعلیب میبینیم جامعه محلی و مهدموی حوزه شورای و دعیه های زیاد اختیاراتی ندارند متاسبانه مدیران بنیاد مسکر به صورت سنیغی دار ما این خواهشی داریم که حتما جامعه مالی دیده بشن و این همین کار اطماع روس تا اگر رمین خودمان مغازه بیکنیم این روس تا هیچ برای نمیکنه. با توجه به لذت روس تا، با توجه به جای خواهش. الان کنجه تقریبا محدودی مانط و اکثر مردم رضایت دارند نهای ساماندهی دیه روس تا یکی است. با توجه به مانط و ثر با تقریبا دستگوره عملها و آفرانینده هایی که در منطقازات چی در داریم حتما برود کنند در بحث این ساماندهی نظارت که ما هم از باشیم موضوع بعدی تقریباً وزیق زمین جناب شما برسید درامت زایی به های دیار یا بیگو پروگی که ولی موقع زمین نباشه مال نزدیک یک سال هست تقریبا در خواست زمین کردن مقاله جنبه می‌کراییسی یه سوپایدارش و من دنیا ماست به ما تأثیر نمیدی یعنی که ما بازار روزی می‌تونیم راه داریم و کلی مدارس پایه ما برای ما خب چطور بیایم ما اکنون داشته و شده و این زمین نداره این در که ما این موضوع را به شما بگوییم. اما این در را من پیگیری بگوییم. اما این موضوع را به شما بگوییم. اما این موضوع را به شما بگوییم. اما این موضوع را به شما بگوییم. اما این در را به شما بگوییم. اما این موضوع را به شما بگوییم. را به شما بگوییم. اما این موضوع را به شما بگوییم. اما این موضوع و بالا یا بیشتر امانی یا ما کارای است ما که بیم متشکیفات و اینارو هم حسیمی ما و این نیست ما یک نکه ما جا بولند یک مناسبه اگر گفته تو ما دوست این شرایط دار که دار که میتونه هم که دیاری بیکونا کلباته با هم موزه پایانی دکتر دکتر موزه و دکتر وادار دکتر داروآن کشور باشکار اولا کلی من من شورای که است و مشاوره مال امکاناتی با نادیده در اینه که باید این مدارک است در اینکه مشاوره در مسائل مالی و حقوقی در این مصوبات شورا یک کارشناس اداره خبر این در اختیار حوزه روستایی نهاد بدن که ما اکتوریم از مشاوره اینها استفاده کنیم چرا که آخر مجدد بفرمایید متوجه نشدم کاش خبر است کجا از چه طریق یعنی بماند. مسئول به عنوان مسئول مورد دهیاری ها و اینا حالا مدیر روستایی که حتی در شهر مستقر باشه که مردم و روستایی‌ها مشکلاتشون رو به صورت مستقیماً بتونن با اون مدیر مناطقات که اختیارات از طرف منوامده داشته باشه فرما کنند و ارتباط کنید این حقیقتیه حالا این بستگی داره که حالا ساختار چی بشه عرض شما که اون چیزی که من برداشت کردم مشکلات شما در حوزه بنیاد مسکن هست بیشتر حالا بحث زمین هست و بحث این شکلی این من زمین و زمین مقوله مهمیه خب فقط در مال روستا نیست در حوضه شهر چابهار هم شما میدونید ما قانون 2000 هکتاری رو داریم غیر از این مستثنیات داریم در شهر چابهار مستثنیات متعلق به منابع طبیعی داریم مستثنیات متعلق به راه و شهرسازی داریم مستثنیات متعلق به بنیاد مسکن داریم و قانون 2000 هکتاری تو حوضه روستا ها هم ما مستثنیات منابع طبیعی داریم مستثنیات در اختیار قرار گرفته بنیاد مسکن داریم عرض به حضور شما که اشکال مختلف زمین داریم در روستا من کلی فقط عرض می کنم. یه چارچوب ماده 65 اولش چی میگه؟ میگه کلیه اختیارات واگذار شد به کی؟ به منطقه آزا های دکتر کردی رو اگر دقت می کردید یه جمعه رو گفتن گفتن همین الان راجب بحث اراضی داریم در تهران در سازمان منطقه آزاد راجبش شیوه نامه می نویسیم یعنی چی؟ رستهارم می گیره دیگه شهرارم می گیره رستهارم می گیره باید منتظر بمونیم اون شیوه نامه در حقیقت تدوین بشه، نوشته بشه، تصفیب بشه تو مراجع زی سلاح بر مبنای اون منطقه آزاد بر اراضی محدوده مالکیت خودش اعمال نظر خواهد کرد بر مبنای اون شیوه نامه تا اون زمان جز مسببات این جلسه در حقیقت نوشته بشود برای این چار تا روستا با نظر مجموعه در حقیقت مدیریتی سازمان منطقه آزاد در صورتی که در حقیقت منافعاتی با سیاست های چون ببینید اونجا یه سری سیاست گذاری انجام شده در بحث هاشی نشینی مناطق هاشی شهر چابهار یه سری سیاست, سیاست گذاری در حقیقت ریل گذاری سیاسی انجام شده توسط مجموعه وزارت کشور یعنی ما طرح ساماندهی داریم چند تا پروژه اونجا داریم اجرا میکنیم که پروژه های ملی یه طرح اقدام ملی داریم اونجا اجرا میکنیم یه طرح خانم بخشدار بهتر از من میدونن یه طرح ساماندهی بنیاد مستضعفان اونجا داره اجرا میشه عرض به حضور شما که 4 پنج تا تر ساماندی هاشینشینی نشینی اینجوری اونجا داره در حقیقت رسیدگی میشه امورش مصوب شده پیگیری شده کلانگ خورده نمیدونم کاره این شکلی انجام شده لازم هست که حتما این مسئله بحث واگوزا ولی اونجوری هم خیلی سخته که ما قبول کنیم شما پنجامتون مربع زمین بابت سرویس بهداشتی نمیتونم شما من نمیتونم قبول کنم این رو حتما به عنوان یک کیس مطرح میکنیم با نظر مجموعه آره اینو یا مجموعه استانداری باید برای شما حل بکنه به هر حال به عنوان حاکمیت وزارت کشور یا مجموعه ارز م... استانداری که از میکنن فرمانداری و بخشداری و رده های محلیش رو هم در نظر نزد... در بر میگیره یا منطقه به عنوان در حقیقت این که جزء محدوده سرزمینیش هست باید در حقیقت پیگیری بکنه اینو با نظر منطقه یک متولی برش پیدا میکنیم مسائل بنیاد مسکن رو حتما سعی میکنیم که با مندس منوبتی جلسه بگیریم حل و فصلش هر ها اون بحث مناقصه اصلا ما ببین ما کی گفتیم که شما مناقصه برگزار کن ما کی نگفتیم مناقصه برگزار بورو تا تا شفات مناقصه بگیر هر پیمانکاری دوست داری ببر ولی ترک تشریفات بگیر بر مبنای فرایند قانونی ترک تشریفات مناقصه رو از شورا درخواست کن بگیر و هر پیمانکاری دلت میخواد قرارداد ببند نمیخوای پیمانکار بگیری امانی اجرا بکنی بازم نظر شورا است به ما نداره در هیئت تطبیق در هیئت تطبیق ربطی به ما ندارد ما میدونیم پیمانکاری که با 4050 تومن بیاد اونجا خیلی کم پیدا میشه ولی تا تشریفات بگیرید بحثی نیست خانم بخشدارم پیشنهاد کردن که عضو مشورتی هیئت تطبیق و مش دارید هیئت تطبیق ترکیب نه هیئت تطبیق ترکیبش مشخص شده است حالا ما انتظار داریم که اشکال نداره گوز مشورتی که دستورالعملم اجازه میدن عضو مشورتی بگیریم اینو بررسی میکنیم اون پیشنهاد آخر شما هم که یه مسئولی چیز بشه اونم باز نظر که به هر حال منطقه آزاد تصمیم بگیره راجع بشه اینا به پیشنهاد میاریم یه روزی تقریبا مساوات بود که ما پیشنهاد داده بودی که پارک روزداه منابلا در بین بی کسی به صورت اداره وارد شدن اونجا رد شده بود دلیلی که رد شده بود چی میارید ببینیم چی برای چی رد شده باید بدی من من بر بر بر من داشدار اینجا ها یعنی ایجاد قزای یا ما مییم تو بودجتون هست یا نه خب همین ببینید این بودجه مسوده بودجه که مشخص شورا بودجه شورا انجام نداد مسا نخ نخیر سرکار خانم خونه قانون مطالعه بفرمید نوشته که کلیه معاملات دهیاری باید به تصویم شعرها برسه. مگر تصویم؟ کجا رسیده؟ نه، نه، دا دا معاملات سرکار خانون. آقا التفایت بفهمیدیم به درد شما میخوره؟ دیزه به من بده بر اساس همون بر شما مثلا در مستندات مستندات منظور شما اینه که بعد می ما که مثلا ما مستندات آیا پرداخت مثلا من نواند. نه قانون چی میگه برد. میگه شرط پرداخت حزینه سه مرحله است در بودجه دیده شده باشه آینامه مالی رایت بشه اسناد مصبتت هم زمینه بشه. گروس شد؟ حالا یا من باید علم غیب داشته باشم بدونم این پروژه در بودجه هست خیلی خوب من که رد نکردم نامه نوشتم گفتم این مستندات رو برای من بفرز آینامه اجرایی هم چی میگه؟ آینامه اجرایی میگه اگر هیئت تطبیق مستندات برش کافی نبود یه نامه بزنه بگه آقا مستندات بفرز. بله مستندات رو ما بررسی بکنیم ببین ما رد نکردیم گفتیم ما ها مستند بفرز در مورد پارک الان یادم اومد چی نوشتیم شما یه آدمی رو گفته بودی گفته بودی این پارک بخواهم بدن به یه آدم فکر کنم یه همچی چیزی بود آه، خیلی خوب ما چی نوشتیم؟ اقیقتن ما نوشتیم طریق مزایده باید انجام میشتیم جواب ما چیه؟ ما گفتیم اتطریق مزا شما همین مورد رد نه، باید ببینیم چی نوشتیم بگو تا ببینیم استدلال چی اول موضوع برداری توسط بخش خصوصی نه. خیلی خود تمام شد اصلا نمیخواد توضیح بدی. آقا واگذاری میشه مزایده. خرید نه اجازه من توضیح بدم دیگه اگه من خیلی خوب. گفتم ما باش شما نوشتی به صورت مناقصه یک واگذاری مزاعده است خرید مناقصه است این اولی ایران این اولی نه نوشتی مناقصه دیگه مناقصه نوشتی. این یک شما نوی مناقصه خرید این نام جلو میشه دیگه که بده چاق بخونه نه اصلا خود به چیز در میخونه که شما نوشتی مناقصه این مزاعده است این یک. تو ذهنتم بذار مناقصه ترک تشریفات داره مزایده ترک تشریفات نداره درست شد؟ یعنی اگر میگی مزایده حتما باید فراخوان بشه این تو ذهنتم شما باشه برای بعدیش سآل دیگه دوستان سال دیگه بفرد دیگه آقا کجایی؟ آقا شدیدم دیگه ایستم روستای کن حضرت علی در جواب مصابقات ما نبشتید که بررسی مصابقات و تطریب آن و قوانی بدون ارسال ملکنتات قابل بررسی نمی باشند. حضرت مصابقاتی که ما می پرستیم، مصابقات باید که ما یعنی داریم در یه لحظه عزوز میخوام، یه لحظه مذاره میخوام. آقا بفرمایید بشینید، اگر که مطالب به درتون نمیخوره، خواهش میگم تشبهت بینو. اگر که مطالب به دردتون میخوره بفرمایید بشینید. اگر که مطالب به دردتون احساس میکنید نمیخوره، خسته شدید یا هر مقوله دیگه‌ای سقف جلسه از نظر ما تمام شده است. جلسه تمام شده. دوستانی که تمایل دارن تشریف داشته باشن بهره برداری کنن، دوستانی که تمایل لول درس جلسه رو خواشتمندم مهم نزن. اسی داریم ماسی سالو قائ تسلیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد مثلا اشعار دادیم برای اجرای فضا حساب تو این ازادات اسلامی و قوانین کشور بالاتر نشود در موسوبه تو منظور بررسی بشی اما شما قابل اینکه این موسوبه تایید نکردی تا تطبیق توافق نامه و کی تفاهم نامه خاص مشهوره باید تو یک تاریخ تایید بشه بعد پیریم با یه طرف قرارداد یا آمون مذاهیده و مناقصه کنیم بعد این با دیو نفع آنامه و بعد این شما ارسال کنیم. اصلا یک تاریخ بازی پشیمی آس بساد ولی بعد میگه تاریخ با دشوارانه و با محاوره توی مهواری نیست. نامه و همین داره کنیم مشهوره با و هم شما بخون ببینی. آی این همون کیسی کی کی نگاش میکردم خب خب شما ننوشتید دیگه ببین نه مناقصه نوشتار اجارهی پارک خب ولی خب درست حالا عرض بزرگ شما که مصوبه ایشون رو بخو می‌دیم چی اینا آقای ببین اینی که شما اصلی صد پنج رایت را بکنم این ها روشتن در, در نامی شماله خلان محالقه خلان از در خصوص برگزاری جلسه، کن در, در خصوص مسببی یک میلیار دیار جهت برقراری اعتبار سرفت هم میلیاری سرفت جمعوری پاسمان برگزاری جلس کن همین همین همین همین همین آ در پسو به به دلیل کمبود در رئیس تو در... راستای شهر و افسایش زیبات نسبت به کاش ایجاد تفاصل در مبارسات مستم اوقات رو خب شورای خدمت شما دارم شما عین مسببی که برای ما ارسال کردیم مستندات تامین نامه مالی ایشای باشه ارسال خب این مستندات منظورتون چی ما همین یعنی اگر تو شما پیش بینی کرد ببین اولا که یک نه ببینید اخه مگه میشه دهیاری یاری نشه میشه کم بوده ببینید آیه ای سالانی یه وقتی از مثلا الان خداییش آیه در جامعه در سال گذشته اعتبارات ما بسیار پایین بود سال جدید یک کو در یک ما که اعتبار خیلی خوبی اومد وقتی ما ببینیم که اعتبار خوب. مثلا در روستای خود یک در یک ما سیصد میلیون خورده ی واریز شد خب مال سرجان پنجم سال ما بود وقتی ببینیم خوبی داریم میگیم خب پس از این پول باوار شما میشینن یه خوب گفتیم چیکار کنیم؟ با تجمیل سامانی روستایی خود شروع میشه داریم باز سازی و محابل و وازوشاگیر در خونه در مصطر انگاه میدن خونه من که اشنادار میشه بیایم به با تعدید حساسیت کنم استاندار رو کنم داره گفتیم به این سرط زیباسازی رو میشه کنم من اینکه از کسایی رو دارم میشه ایجاد فضای سبز داشته باشیم د خب این ما دوباره آمد شما شما میشین مستندات مالی خب ما مستندات مالی ما رفت بودی که از شفت که وزارت کشور وکیل نظر حساب نه ما اصلا نه, نه ببین باز دوباره این خیلت مطلب شد خب شاید واقعا لازم باشه رو دعوت کنید توی چی. حتما ای حقیقتا این کارو بکنید نه ببین آخه ببین اون چیزی که شما میگی با این چیزی که ما میگیم متفاوته خب شما میگی که آقا من میخوام فضای سبز من, من. آقا مصوب شد چراغ گفت آقای دیاری برو فضای سبز انجام بده خب این اصلا مصوبه نیست درست شد این یه بحث داخلی تونه وقتی که شد. مصوبه که یه مصوبه وقتیه که شما بشینید و یک تصمیم بگیرید بگی بگیری آقا من بلواره مثلا چه میدونم خیابان فلان رو درست شد قرار شد فضای سبزش رو بدم به پیمانکار مثلا خب این میشه مصوبه اینی که شما با بله، نگاه بله حالا مصوبه مالی ما وقتی میخواییم بررسی بکنیم سه چهار تا پارامت تو مصوبه مالی بررسی میکنیم یک، وقتی شما یه چیزی رو پیشنهاد میدی که بار مالی داره باید تو بودجه دیده شده باشه اگر, ن... اگر ندیدی باید بری بودجه تو اصلاح کنی یعنی چی؟ یعنی یا اون رو ببری یا باید متمم بزنی خب؟ یعنی افزاش درآمد داری اینی که شما میگرم میشه متم افزایش درآمد داریم و میزنی. شعرها مصبب میکنم و پروژه رو تو هزینات میبینی. درست شد؟ یا اگر که درآمدت افزایش پیدا نکرده اصلاحش میکنی. میگی آقا این تیریبونه نمیخرم جاش میرم فضای سبز اجرا میکنم. اول باید این مانیفست مال این صورت مالی اصلاح بشه. چون طبق قانون شما مکلفی در چارچوب این بودجه حرکت بکنید. وقتی تو بودجه نیست نمیتونی انجامش بدی طبق قانون. بنابراین یک اگر میخوای انجامش بدی در بودجه نیست برو اول بودجه اصلاح کن. دو وقتی میخوای انجامش بدی باید آینامه مالی رایت را کنی یعنی چی؟ یعنی یا میخوای خودت انجام بدی، میخوای بری گل بخری درست شد یعنی یا میخوای بری عرض میکنم کنم من کامل بشه. یا میخوای خودت انجامش بدی، درست شد امانی باشه، میخوای بری گول بخری باید فاکتوری که رایت میکنی بر اساس اون معامله خرد باشه، هیچی معامل متوسط باشه، سه برگ استعلام بگیری، معامله عمده باشه مناقصه برگزار کنی یا تک تشریفات بگیری. درست شد؟ بنابراین یک اول باید تو بودجت باشه. دو باید آینامه نامه مالی رایت کنی. درست شد؟ سه باید پول داشته باشی. این سه تا شرطو ما توی یه تطبيق کنترل میکنیم درست؟ یعنی اول بودجه نگاه میکنیم بعد نگاه میکنیم که تو پیشنهادت آوردی که این نام مالی رایت میشه می کدومو؟ ما شما از ما خب؟ ما می نه خب بحث ما تو ه... ما نه سه توی... رو ما معمولا مشروط می نویسیم یعنی چی می نویسیم اگر تو بودجت هست ادبیات ما رو نگاه کنید می نمیسیم اگر تو بودجه هست با رایت آینامالی به شرط تأمیل اتبار بلامان است یعنی ما اولی رو فیکس می میگیم تو بوجهت باشه دومی سومی رو به عنوان شرط می میگیم می آقا اگر تو بودجه بود آینامالی رو رایت کن بعد از تأمیل اتبار انجام بده. تمام شد. مصببه که رد نشده عملا. فقط تیکه بودجب چون قانونه برای ما رایتش الزامیه. اونم تیکه آخره برای چی میگیم؟ چون حسابداری دهیاری ها مثل حسابداری شهرداری ها نقدیه یعنی چی یعنی ما چیزی به اسم بدهی توی شهرداری و دهیاری معنا ندارد میگه چی؟ آقا میری تو مغازه بقالی باید توی جیبت پول باشه نسیه نمیده روش باید توی جیبت پول باشه بری پروژه اجرا بکنی اینی که الان شهرداری های ما و دهیاری های ما کلی بدهکارن این خلاف دستور العمل حسابداریه چون دستورال حسابداری شهرداری و دهیاری ها نقدیه یعنی چی یعنی پول داشته باش برو خرید کن اگه پول نداری کسی رسیه نمیده به شهرداری و دهیاری این دستور العمل حسابداریه نمیخوام قرض کنید انجام بدید برای همین ما قانونا باید بنویسیم تامین اعتبار اون چیزی که ما خواستیم ببین ما مصوبه رد نکردیم آینامه نامه آره آینامه نامه اجرایی به من چی میگه میگه من زمانی که شما مصوبه بر من میفرستی من دو هفته فرصت دارم که بررسی کنم درست شد دو هفته ای من بشه 15 روز شما میتونید به اجرا کنید مسئولیتش با منه من هیئت تطویق درست شد ولی همین آی نامه اجرایی میگه اگر من یه نامه بر شما زدم تو دبیرخانه شورای ثبت کردم که آقا این مدارک که برام بفرست این کورنومید وامیسته این وامیسته درست شد از زمانی که مدارک به من دادی دوباره 14 روز شروع میشه دوباره 14 روز شروع میشه نه یک روز دوباره 14 روز شروع میشه از مدارک برای همینه وقتی میگم وقتی مدارک میفرستید کامل بفرستید که دیگه بحانه ای دست من نداشت برای 14 روز درست شد؟ حالا اون بحث چیز رو هم ما یادداشت داشت میکنیم حتما دوستان مطرح بکنم سوال دیگر به دیده با جایی که کردم گاردن بروتچش ولی قرآن اصل 105 و و ما دلوقتي مخلص دلوقتي اصل قوانین و مخلص و شما هر دوتا هستیم ولی آره. تبیب با چی تطبیق بر اساس اون همو نه همون اصل بخون یه بار کامل بر ما اشکال نداره. ببین. همون اصل بر ما بخون. چی میگه؟ مص... نه. مصطب. بخون اصل رو دیگه. نصف کاره نگو اشت... از... کی داره تشخیصش میده؟ من. خب من دارم اونه تشخیص میدم. یعنی من عملا اصل صد دارم اجرام. نگفتیم نامه گفتیم آقا. مدارک میخوام. بگو ندارم خب. نه نشد آقای رئیس اصلا قرار نیست تایید بشه ببین ایجاد فضای سبز یه ایده است تو کله شما مصوبه نیست شما اگه میخوای اجراش بکنی مصوبش کن برای من بفرست من بررسی بکنیم وگرنه من به ایده شما سیا... سیاستگاه خان بخشتا شما باید بشت نقطه دیگه تو این نام اجرائی ماده اشتا و قانون تشکیلات و اضائف شورای اسلامی و شرط دارا خب مصحوب افتاد و قاند ماده چار قفت حاصل بیشتر و دائیوتر مصوبات شورا رواسا ی ایدای تطویر می طوانر مندور نظرات مشرقی از کارشناسان زیرا پیدون داشتن حد رائع برای حضور در جلسات <تصفيق> اولا هشتاد شده واسط باشه. هشتاد اصلاحی سال نوت چی شده ماده یک. دوم هم گفتم مو از گردن ما باریکتر گفتم های حقیقتی هم جایی که لازم باشه دعوت کنه میتواند می گفتم وارد چالس اگه بخواییم بشیم نه. کلمه به کلمش حرف داره میگه میتواند یعنی چی؟ یعنی من اگه تشخیص بدم میخوام اگه تشخیص ندم نمیخوام اون با منه ولی من احترام گذاشتم به جمع ارز کردم خدمت های حقیقتیان جایی که مصوبه چالش داره دعوت بکن گذوه شورا بیادی یه مصوبهاتی چالش نداره روطین. راحت روتین معمولی شما رعایت کردید مقرراتو دیدید قبلش خوندید انشاءالله این کتاب خوندی درست نه ارز میکنم میگم این آمد. که میگم این قوانی منظورمه آمد. این, آمد. این آمد. کتاب خوندی آمد. ارز به حضور شما که یه مصببه نوشتی کامل مقررات توش رایت کردی دلیل نداره به توضیح بدی یه جایی چالش وجود داره آی حقیقتی هم زحمت بکشید مصببات چالشی رو با هم همه کنیم دعوت کنید دوستان تشریف بیاره باشد. این ماده نوت هشتاد نه نوت یه دو تا مشورت دیگه از مصببات داریمی زمین های چمنه، حالا قرارداد نبوده خود، خدا آقای چاکرزی زمانی که محاملت فرمانگی بودن که محامل این منابع مالی هم که گوشتر درستشون بازه خود، خدمتون هست که آقای در جریان ما تردیباً در خود بخش منتظی، ده تا زمین چمن، الان آمادی بحری برداریدم، چند تا رو افتتاک داریدم، همان به مثلا مشارکتی، زیرساختو د دیګاری انجام داد با همکارته مرحوم دیما د یوستا سیر سازي 150 مليو په 10 مليو دیګاری واقعنه 140 مليو می خوای چی کارش کوی خلاصش وو ما چی کار شو داین چمن مسئولی رو کله منطقه آزاد داري چمن مس می دونم می خوای چی کار کوی الان الان دو سه تا زهیاری های مال دادن شما نه که تفاهم نامه تفاهم نه می نگهداری شو بدید منطقه آزاد چی پز زیر انجام شما میخوای انجام بدی؟ دهیاری دهیار میخوای انجام بده تو بودجت باش حرفی نداریم اگر در بودجه پی بی پیش بینی بکنی در بود عرض میکنم میاد میا تو همون فرایند اصلاح ببین خانم بخشدار ببین باز بر میگری به همون حرف اول ببین شما اگر نه من توضیح بیدم حل میشه گرفتم شما چی میگی خب ببین شما میخوای یه ریال خرچ کنی درست شو؟ این ریال خرچ کردن یا احداث زیر ساخت زمین چمن مسکونیه یا خرید این خودکاره یا خرید آب فرق نمی کنه روش شد این باید تو بودجت باش شما صد باره میتونی بودجه اصلاح کنید وقتی که شما کلا وقتی انقدر شما بی برنامه ای صد بار اصلاح کنید نه م... مشکلی نداره. کلا پیشنای آقا معلومه که اهل فنه. خب حالا من عرض کنم خدمت شما همه اینا رو مصوبه شورا میگیری ولی بودجه اصلاح نمیکنی. مصوبه شورا میگیری، آخر سال یه اصلاح بودجه می‌زنی همه اینا رو توش عمل میکنی تمام شد. حرف آقا درست ولی مصوبه شورا قبل از اجرا باید بگیری. یعنی چی؟ یعنی بگی آقا خرید نک انجام نمیدم، بجاش خودکار میخرم. این اصلاح یا می افزایش درآمد دار متمم یعنی چی ببین فرق اصلاح و متمم و تفریق رو باید دوستان بدونن اصلاح چیه ما چهار تا اصطلاح مالی داریم حالا خوب اینجا کلاس آموزشیه بیشتر ما بودجه داریم آره ما بودجه داریم درست شد یعنی میایم اول سال چی میگیم یعنی اول سال قبل از پایان سال 1000 عرب بزرگ شما که 399 بودجه 1400 می‌بندیم تو این بودجه می‌گی ما اینقدر درآمد داریم 1000 تومان ردیفاش معلومه اینقدر خزینه داریم 1000 تومان ردیفاش معلومه درست شد اینقدر حقوق جاری می‌دیم اینقدر خرید می‌کنیم اینقدر سوخت می‌خریم اینقدر فلان می‌کنیم فلان می‌کنیم فلان فلا اینقدر پروژه عمرانی انجام میدیم درست یک درآمد در یه خزینه این میشه بودجه درست در وسط سال شما یه دفعه یه درامدی گیرت میاد که پیش بینی نکردی بودجت اضافه میشه یک ساختار رو باید تنظیم کنی به اسم متمم, متمم. اینجا درامدت اضافه میشه معادل این اضافه درآمد میری تو حزینهات پروژه تعریف میکنی حالا یا جاریه یا عمرانی فرق نمیکنه یا میگه آقا من درآمد پیدا کردم میرم حقوقم اضافه میکنم بر بر مقررات باید رایت بشه البته یا میرم مثلا فلان پروژه رجرا میکنم بر مبنای افزایش درآمد اون موقع شما باید متمم ببندی درست شد یه موقع هست درآمد تغییر نکرده ولی اولویتا تغییر کرده الان فصل انتخابات حاجی آقا میگه آقا ای دم خونه آقای سرانی رو برم آسفالت کورا که من رای بده درست شد یک عرض به حضور شما که اصلاحی در بودجه انجام میدی یعنی میای میگی آقا پروژه مثلا در خونه خانم خانوم بخشدارو کزفش میکنم میرم دم خونه سارانی رسل اسلا... آسفالتش میکنم درست شد یعنی اصلاح میکنی بودجهتو این درآمد ثابته فقط تو اون ساختار هزینه ها یه ذره دستکاری میکنی بالاخره این اصلاحه درست شد تفریق بودجهم که تکلیفش مشخصه سال مالی که تمام شد میاد درآمد و هزینه رو با بودجه مقایسه میکنی انحرافات رو بررسی میکنی و شورا مصلح میکنی میشه تفریق بودجه ما 4 صورت مالی داریم این چارتا رو بهش میگه صورت‌های مالی. درست؟ حالا برای اینکه ما هر لحظه این فرما رو دستکاری نکنیم در طول سال در حقیقت میایم مصوبه شورا رو میگیریم. یعنی میگیم آقا اصلاح بشه این پروژه کم بشه، این پروژه اضافه بشه یا افزایش درآمد داریم متمم بشه. درست شد؟ این کار رو انجام میدیم ولی بعد آخر سال یه بار اون صورت مالی رو بر مبنای مصوبات اسلام می‌کنیم. سال دیگه بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام و تبریک عیان رئیس هستن شورای کن یکی از عمد مطالبات مردم که روزانی از ما می پرسن. مردم خیلی خوشحال شدند زمانی که روستاهای آشیه به منطقه به سازمان اعلاق شدن اما سوالی که مکرمان از ما می که سم مردم از اعلاق یا سم روستا از اعلاق سازمان یا سازمان چیز یا آورده سازمان به روستا این سوالی که مکرردن می پرسند، مسئولین محصولین مدروازات اکسرشان تشریف و موضوع دیگه بحث روند کند ساماندهی که بودیان دو شروع کرده قرار بود در دو سال در مقرده اول گفتند که ما اینجمش می اما خیلی کنده انوز هم که انوز تو بحث تصویب نقشهشان موندند حتی این مورد الان دوستان گزارش کردند که برای یک فردی که قرارداد واقزاری گرفته در د به هر دلیل مؤخراً نشریه ساخت ساز و انجام بده الان رفتم مراجعه کرده 160 میلیون جریمه وار داشته رفتم یعنی یه رقم خیلی سنگینه از این طرفی که ما اینجا اکثرا به واسطه‌ن از شیشه رساله تفاصل این رقم 160 میلیون یعنی برای دوستان واقعاً سنگینه چیزی که مستند دلیلش و سازه جریمه چی طرف قرارداد واگذاری گرفته پروانه ساختمانی گرفته که ساخت و ساز انجام بده شرایط مالی نداشته به هم دلیلی نتونسته طولانی شده پروانه تمدید کرده الان در همزمان با تمدید پروانه سادش هست جریمه کردن که بنیاد مسکن جریمه کرده؟ آره نه حالا ما که کلیات چی میدونیم چه خبره ولی باید پرونده رو ببینید اینجو نمیشه سنوزه نه نقش منطقه آزاد بر آره متوجه شدم ببین ما شما نمیدونم از اول جلسه بودی راجبین ها بحث شد دیگه بنیاد مسکن و قرار شد خدمت های دکتر کردی مطرح کنیم دردگاه دلق های شما رو یه جلسه بذاریم اگه بشه نقش منطقه آزاد من توضیح دادم خدمت شما هرچی در حقیقت اولم توضیح دادم به صورت کامل نمیدونم صدق کنم ک دیگه. دیگه چشم یاد داشت کردیم های بیشتر ارتباط داره ما هم از مباحثی که بومی ها می ما. ما مثلا به عنوان افراد بومی چه سن در به کارگیری داریم مثلا الان که مستقیم مثلا روست دارد زیر نظر منطقه آزاد مثلا به بحثه های جزب بیروه اینا و استقنانی ها مثلا بیشتر دیده بشه. چه خود سازمان؟ چه اون شرکت هایی که به این مجبوره هستن؟ من... این هم کنید ولی این قبانه مقررات خودش شداره دیگه حالا یاد میکنیم میکنیمش چش اینا با مدیران جلسه ها چونم این ها با مدیران انتقادات ها چونم این درده در مردم ها منید بسته نقطه... این تا اینکه یه کم چون سمات که اون بوجهی که من خب من در دکتر مصطفی که خدمت دوتو بزرگوارمون جناب رئیس سازمانه ولی باشیم دوستان توجج دو شده در باره رعایت دقیق و باز از دیاران بگم ما برنامه نداشتیم که در واقع موضوع بیان مشکلات دهیاران مدیران از ت صحبت همکشور اشاره بر هماهگی می کنم که تو ما باشین با معامت ها مدیران نمی امکان استدوباات ها و مدیران ما, فکر خیلی الان ما شما معلوم و معاونین فکر می خیلی سخت باشه ما معاونین شما با درگیر هستید همشون خ دترش رو خیلی راهحتتون تشی داست اوت ب به توف هم دوستان با خودمون می کرد هر اگر میال میره دستم می داره میره. شما گفتید هر موضوعی که بخواید اشکالی نداره خودمون دفتر مشخص کجاست جلسه را هم بدارید. فقط من یه تأکیدی بکنم من گفتم ولی چون مهمه تاکید میکنم ببین اگر جلسه هم بذارم باید با برنامه برید. با برنامه و هدفمند یعنی اگه قرار باشه مثلا بیادین جلسه بذاری که مثلا آهی چاکرزی داخلش باشه مثلا خود آهی دکتر کردی جا... باید حرف برای گفتن داشته باشیم بر مبنای برنامه بدون برنامه نتیجه نمیده اینو توصیتا نزمی کنم خدمتش خب سآل دیگه دوستان انشاءالله کجا بریم ما که گفتیم هرکی کار ندار جان آجاب بسنیم و شو از ترک کرده بود کجا جلسه ترک کرده بوده بخش هستم مستقی مستقی نه ببین اینی که شما شاکی هستی خب شاکی نه, نه نه هم دوستا، اونجا رو نمیدونم ولی این جلسه رو توضیح داد حیقتی حقیقتیان خب این جلسه اولا جلسه اوله خب دوم ما. اول که آقا یکی میخواد به جنگه اول سربازاشو میفرسته دیگه ما سربازاشیم خب تازه ما سربازشیم ببین اون خودش بیاد چیز جوری <تصفح> این نه اینو من باب عرض ارث کردم من باب میزا کردم خب ببین قرار شد ما مبانی رو با هم صحبت کنیم این الان مبانی ما حرف کارشناسی زدیم آ دکتر کردی هم اینجا نشسته بود یا آقای فرماندار هم اینجا نشسته بود در ادامه بس خیلی نمیتونست به شما کمک کنه ولی ما اینجا نشستیم با هم دیگه شفاف حرفمون زدیم درستو مص... سازنده و مثبت و رو به رشد صحبت کردیم با هم دیگه انتظاراتمون از هم دیگه بیان کردیم الانم بر مبنای اون پیگیری میکنیم به نظر من خیلی بهتر شد که تو این جلسه یعنی من خودم اصرار کردم با حقیقتیان گفتم شما برو بالا آقایونو بفرست بره که ما میخوایم حرف خودمونیه داخلی بزنیم با با خیلی چند سال دیاری هستی شورای بخش بخ اینا ما وارد چالش تکو چیکار کردی شما توی این مدت که بعد حالا میخوای منطقه آزاد به شیش ما برمی ندیم بده حاج آقا خیلی عجله داره اگه سالی آیم از شما فرمایشی چش چش خدمت می‌رسیم حالا ما بیشتر خدمت شما می رسیم ببینیم آیم از اگه فرمایش نهایی دارن بفرماییم لطفاً را اینکه تو ذات جامعه و کمیته قانون‌گذار، علاوه زحمت کم کم بر برصورت موارد دوستان اشاره کردیم. ما چون فایس که بر بحث تعیین تکلیف و شو ماریسا فستر بنیاد مسکن پیگیری کردیم. اینا در تملک بنیاد مسکن مشابه گرفته بودن چند سالی که دو سال درگیر بود و تملک کانون مسکن در اومد. حالا مسکن در موقع باید محدود و تفسیست شده آدم ها رو واگذار کنیم به اون دیای ها هم دیگه برای پیگیری گه این بود تا شش ماه پیش هفت ماه پیش در واقع این هرچی و واگذار کنیم حوا دارم می‌کنم حالا این مورد شما دو سه بار من با این می‌بینم همش گفته بودم که با می‌گوام دیتی واگذار کنم برقید برقید و رو بگم رو رو در واقع چهار پنج تا دوستا رو تایید کنیدش تا اینکه کیرا ریزاکوی رو ده دوستان هنوز دیر بشه. حالا مجدد نشه ما بعد ما می‌گیم کرد. حالا مباحثایی صریح بحث که شانپیشنهاد دادیم جناب مالی مس سریع جمع‌بندی کنی بحث من زنده نیاوردی و مواردی که نیاز باشه ما اومدیم خدمت. حالا بیه مباحثایی که من خودم انتقاد داشتم دلیل من جلسه کارشناسی خدمات آینده کردن و بعد مقدمه برایشون بودی خودم در واقع اشاره کردیم و تاکید داریم که در واقع یه نفر عنوان مشابهی تر دوسری هوز روستایی از مدت واقعی در نزدیکی میشه. بیو دغدغه روستا با همگیری شما به شما ترد بده ایده بده و علل بدی رو مشخص کنه که حداقل بر اساس اون شما برنامه ای هدفمند باشید بتونید خاص اعتبار کنید بخش ما نمایندگی کنیم شما بخش در واقع منطقه آزاد نمایندگی من میکنم می خدمت شما دینایتن همونطور که های در واقع سازمان هم عنوان هم کردن شما همچنان مصمم کاراتونو پرتاب و برترشته از وزشته پیگیری کنید چون راست میگم خدمتتون حالا بر صورتی اگران ما بتونیم از تمام کنانسید مجموع جهت حمایت باید. از بروشه های شما و طرحای شما بتونیم در کار قرار بدیم. اون بخش های نزارتی و بخش هایی که داخل ما داریم. با بخش داریم و مجموع مجموع آزاد تشاره بتونیم یک جمعنی داخی برسیم. و هدف که ما بتونیم از توانش یک طرفزایی دستت مسته ها با همینکه ایجاد بشه. از طرف یا در واقع حالا، سایر سایت شما گفتیم اینا یاداشت که میتونن اینسطح استان بگیری کنیم بخش رو ما میشه ما هنتن برای د کارینلا سنداش اون خیم س ب اگر یه تصویر بشیم ما عداقل این اصل میکن پتون اهد بود که بهطور می حدود استستا و عنوان استستا های شاهست رو در استا حدا حداقل کشور بشه ما تیم بودان سیلا که در قرارهایگرگه یا بوم کردی و س و سادی و, و, و سایر یه درم مسکن از در سه وقت بشمیده که این سه چی چی در دوار که سه میتونه که بکنه انجام بده خواهی ایده باب جمه رفا امراش روسته اید و ما اون حبیب روستای دوی دور نمیبینیم با سراباده شما از تمام بخش شورای کلامه بیش از در واقع دو سال 750 750 زمین واگذار شده به روستاییان همه من لیستشو نگاه کردم در واقع به غیر بودن واگذار شو هیچ کاری نکردن هر روزم مجبور دهیاری و شوورا درخواست آب می‌کنم درخواست سرآهدی می‌کنم درخواست نیمه توسعه در در در روستا می‌کنم اگه این قراردی که واگذاری انجام بشه و طرف زاویه بگیره مثلا در حال حاضر انجام شده دیگه بعد الان درسته فقط ولی الان به شدت تاکیده ال استانداردی منتخب با شورای دارم تقالب موازی ما با دهیار در واقع متخلف بمخضر باشه بس اون مالی باشه با من بدون با باشه هر واسه هر اگر اگه تخلف ما در واقع اون کما را به قانونی معرفی بشه هدفیه که نانندگان ما حداخت به حقدار برسید صد روستاها نه این درخواست خاص این قوانین مالیه شوم زمینخاری می‌بینید در روستاهای در واقع ساحلی چوبان کناره خیلی داره در واقع گسترش پیدا مگه همه اینا واقعیت هم همین میشه. درخواست آموز دامی میکنند، بچون دامی واقعیت هم پشیش کردن نمیکنند. من شما میشن آب میخوان، برق میخوان، خدمات میخوام و هنام دارم میگم کنید همه یه مافیای کشورش هست پس دامی کنید. خودتون دیگه میدونید. نمای کمر زی، <تصفيق> اصلاً نمیکنم. خب سه نوشید. ای باشه دامی. زمین کردی ما رو ببینیم چرا نیست ولی خب چون درد داره ایجاد مشکلات زیاده میبینم که یه مدل کلی وجوده برای همه چیزه. می ریزند شود دردناور می ریزند ولی باعثی اینه شما می فرمایید که استعداد می به شورا و جهان تاکرار می با اداراتی که تاکرار کردن کند کمکاری کرده. با اونا بارکور بشه. هیچ موجب صحبت تا با اون اداراتی موسکای می کنند. اما نشون میده. اما نمی‌دانم. کردیم که از کشور شهادی. چرا یه تفاوت افتاده سال این چرایش هم نگاه کنن، کارشناسی کنن، برسی کنن، از چرا چرایی اتفاق میفتد اینجی چهاربار کناره. وقتی دارند سازمان در برنامه خودش اقابان تأثیر شورا دیار چیه؟ تا این شورا شورا دیار چه اقدار اداره؟ شاید ما این کاری که امروز نشده باشیم، ولی من میگم که هیچ موقع برخورد با کمکاری و سرانه دنیا اداره نشده. خواستون که همیشه اگر از داخل رو بی با یه اگر من شورا گزارش بکونند دیار دیوال اداره ادارت را هم سازه بنیاد و مسجد و مسجد شهر شادی را اونها را ببینند با کمپانی اداره ادارت را جلسه نسبت یک تا چند نفر از گروهای بودجه مقصدی گروهای غنی باز داشته دست‌های جزئی دیگه به صحبت نمیزنن تو عمل نشون میدن بس همون کس پیگیری خایم کرد حالا سایر موارد موارد هم یک جلسه قرار نیست وSqlClient اسامو اسنام که هر کین نشون سایه میکنن که با ترجمه این که بعد از قران کمدار بشه ممکنه جلسات بیشتری بذاریم با هدفی که داریم من خدمت خانم شیخ خزی مرتب بالا تماس میگیرم کارگاه مصیب بذاریم نشسایی بزاریم, بزاریم. ببینید در این 32 تا ستاد روستا که حداقل بعد بخاست این روستا توجه ویژه بشه که حداقل توسعه همین جوری داشته باشه من فرض میکنم علاوه چون امام جانوای دکتر هست که یه روز 23 می که کامل همین داشته باشه. سلامت رہیں همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم معوذات فلق فلق من شر چون اون این همون چیزا رو نداره دوباره واسه بس آموزشی باشه حالیه یه آموزشی طریق میکنم با شما هدف همونه اعضا همونه فقط نوعی دارش کوراهای ها جوریه که برحقه شما یعنی مجموع میشین حتی اگر دوست داشته باشین ترایید کنید اما